دارم بله ولازم بله. کارو خودیم <تصفح> فقط شما گردناتو درد تو چی میگیم میتونم بچرخی من از اون ور نه من در سمت آیتی تی فعالیت میکنم بله تو شرکت هاسیرام هست الان بله زمینه آی کارشون فقط زمینه آیتی تی و طراحی وبسایت و شبکه و بله درسته, درسته. برای بله شما چی میکنید دقیقا اونجا من کار دیزاین انجام میدم دیزاین و برای طراحی وب سایت و اینا کانتنت و با با فای چالی خب پس هنرمندم هستم خب خب دوستان من چند تا اولا که برای دوستانی که نیامدن من اسمم سیما شعبانی هست فوق لیسانس مدیریت برنامه و صناعت دانشکده تهران دارم یه فوق لیسانس مدیریت اجرایی هم دارم 25 سال سابقه 24 سال 24 سال سابقه کار دارم که در حوزه مشاور مدیریت تدریسم در کنارش انجام می‌دادم. سنم کم از نوزادی در واقع تدریس می‌کردم و مشاوره می‌دادم. خب. اه یه چند تا مورد هست من در رابطه با کلاسمون بگم. ببینید دوستان، بحثای مدیریتی، بحثای صفر و یک نیست. ما اصلا خوب و بد نداریم. یعنی تو این چهار جلسه هر صحبتی که میکنیم، هر بح... مبحث رو که میگیم، هر خصوصیتی که در مورد شما ها امکان داره اینجا بهش برسیم، اینجوری نیست که این خوبه یا بده. خاص شماست. خاص نوع نگرش شماست. تفکر شماست. درسته؟ حالا، اگر نیاز به اصلاح داره، اصلاحش میکنیم. اگر حالا یا خودتون به این مبحث میرسید یا ما اینجا دقیقه کچول اشاراتی به بعضی از مباحث میکنیم شما باید میرید ببینید که در چه وضعیتی هستید امکان داره با شرایطتون مجبور شد که یه مقدار توامده یا محارتاتون رو افزایش بدید و یه بلاخره بازنگری بفرمید روی رفتارتون روی مدیریتتون یا حتی شخصیتتون پس ما هیچ مبحث خوب و بد نه به قان قانون دوم هرچی صحبت میکنیم دوستان بحث بحث تیفه ببینید همطور که گفتم که صفر و یک نداریم بحث ما تیفیه ما یا این به این سمتیم یا به این سمت. اصلا اینجوری نیست مثبت و منفی باشه بستگی داره هر کدوم از این دو سر چی باشه یا حتی سرهای مختلفی داشته باشه حالا بستگی داره به اون مبحثه که صحبت میکنیم یه قانون دوم قانون سوم ما اینه که دوستان ما برای اینکه واقعیتش این مبحث رفتار و مدیریت منابع انسانی رو تو چهار جلسه هر ادعایی من داشته باشم واقعیتش درست نیست فقط من می‌خوام با مبانیش با بیسیکش که مهمه یعنی امکان داره که شما اگه یه جایی باها سر کار با حداقل اصطلاح‌ها رو بدونید واقعیت فرصتش کوتاهه برای همه من مجبورم که روی مبنایی که در میدونم کار و اساس کاره با شما صحبت کنم ولی دوست دارم که اگر اجازه بفرمایید هم یه کیس انجام بدیم پایان هر دو جلسه همه که من فیلم براتون بزرم ولی فیلمو چون نمیرسیم توی ساعت در واقع کلاس اگه دوست داشته باشین بعد از کلاس من حاضرام بمونم. حتی یه نفرم اش شماها بخواد بمونه من میمونم و اون فیلمو با هم یه نگاه میکنیم در موردش صحبت میکنیم و همه برای جلسه آتی و جلسه آخر برنامه‌ریزی بفرمایید که اگه خواستیم بیشتر بمونیم مشکلی نباشه. آزادم هستید می‌تونید بمونید، می‌تونید ترشید ببن. خب شما چه خبر نمی‌ذارید که من باید بدونم؟ آه. یعنی شماها حتما میخواید که سوال بپرسیم، سوال قصورت ادیشه و مطمئنا مشارکتم میخواهم درسته خب اگه اجازه بدید من شروع کنم اینو درست اینو میشه ما گیر میشه شما نه شما من فکر کردم گذاشته بودن که من پخششون کنم لا اشکال نداره باشه اینجا هم. خب دوستان درس نامتون یه نگاهی بفرمایید اینو برای دوستای من گفتم بدم بشون نه حالا عجله نکن چون بعدا سم بده توی درسنامه رو دریافت کردیم دیگه باشه این نا؟ نا؟ خب بدم به دوستان، بفرم رسیم <تصفيق> <تصفيق> بله، بفرم رسیم اگر دگاه بکنید داخل درواقه پوچه داریم که به کار ما در موردش درواقه صحبت شده. اول اینکه ما توی رفتار سازمانی چی میخونیدیم؟ نمو دید من آر چی رفتار یعنی بحث رفتار سازمانی ما می‌خوایم ببینیم که توی سازمان آدمایی که با هم کار می‌کنن چه شخص شما چه شما رابطت با تیمتون، با بقیه همکاراتون، با مدیرانتون و همچنین رابطه‌ی شما با این گروه در سطح سازمان، با چه سیستمی، با چه فرهنگ سازمانی، با چه فرآیندهایی، درسته؟ با چه ارزش‌ها و مباحثی که توی در یک سازمان مطرحه، شما دارید باهاشون تعامل می‌کنید و در مقابل رفتار ها واکنش شما یه رفتاری انجام پس ما میخوایم بریم که روی بحث در واقعی مقدار اخلاق، مسئولیت‌های اجتماعی و در رابطه با بحث‌های خود این که اصلا رفتار سازمانی چی از فرهنگ سازمان چی هست و چی ابعاد دیگه از فرهنگ رو بعد تو سازمان نگاه بکنیم و بعد بیام سراغ مبانی رفتاری فرد نگرش شما چیه شخصیتتون چیه چی ادراکی از محیط دارید درسته و بعد بریم تو سطح گروه بحث ارتباطات رو داشته باشیم بحث کار گروه یا تیمی رو داشته باشیم و همشینه یه کوچولو سراغ بحث‌های مذاکره که بحث‌های شیرینی هم هست اگر انشالله برسیم که یه نکات کاربردی از اون رو من براتون بگم خیلی کاربرد داره برای ها شما. چون شما مدام در حال مذاکره با مشتریاتون هستید با دیگران هستید با خانواده‌تون با همکاراتون درسته و حتی در واقع با فرزنداتون هر روز که با ماشین میاد بیرون در تعامل با الارمایی که تو ماشین می‌دید راست چپ، علامت خطر داریم، همش مذاکره نمواریم یعنی تمام این رو که ما بهش می خواهد بپردازیم این اصافان با ما عجیمه با زندگی شخصی و کاری ما در واقع تعمان شده درست؟ لبخند بزنیم خواهش برنقه جدی نماشیم خب، دیگه چی؟ توی در واقع بحث مدیریت منابع انسانی آن چی که مبنان منابع انسانی هست اینه که وظیفه در متخصصین منابع انسانی چیه و چه بحثایی شما مدیرا حالا اگر بیزینس کوچیک داریم که تا اینجا که من دیدم شاید دو نفر بیزینسشون کمی بزرگ باشه بقیه کوچیک بزرگم نمتوسته یا خود شما دارید منابع انسانیتون رو اداره میکنید یا اینکه مدیرانی رو دارید که این کار بر شما انجام میدهد ولی قانون یا تئوری مدیریت از دوزار و گفت آقا جان اصلا اینجوری نیست که شما مدیر منابع انسانیت داشته باشید آقای کاشنی عزیز همه کارا رو بهش بسپورید همه مدیرا باید چی باشند بازوی مجرب به انسانیش، یعنی خودشون باید سردشته رشته باشند در رابطه با مدیریت منابع انسانی. بدونه؟ رو بدونه اینکه چجوری استراتژیش رو بریزه اول سال، بعد ببینه چجوری برنامه‌ریزی کنه برای نیروی انسانیش، چجوری استعدادها رو مدیریت کنه، آموزش بده، توسعه بده و بعد چجوری به اونا جبران خدمتشون رو پرداخت کنه و همچنین بتونه که برای اونها یه برنامه طولانی مدت داشته باشه. حالا اگر که پارت داره یه جور بحث برنامه رزی داره اگر تمام وقت داره یه جور اگرم که میخواد که افرادی رو در واقع دوست داره که همیشه تو مجموعهش باشن بلاختی دیده اول که این افراد رو با خودش همراه کنه توی سالهای آتی اگر بخواد اینا رو چجور نگه داره؟ تا انفرسال اون فرض که حالا از سازمان یا بازنشسته میشه یعنی که به هر نحوی سازمان رو میکنه ترک این مباحثی که ما موخویم بهش بپردازیم. یه چند تو کتاب بهتون معرفی کردم که منابع اصلی هست ولی همین پاورپوینت ها رو در همین حد، اگر که فقط می‌خوانی آشنا بشین، کافیه ولی اگر میخواین خیلی ریز بشین، خواهش بکنم که برای شرکتتون یه دونی کتاب رفتار سازمانی یا یک کتاب مدیعت منابع ازن، حتی که کتاب خونه سازمان داشته باشید، بعد نویز آدم می‌تونه بهش مراجعه بکنه. درست؟ دو تا تست دوست دارم خیلی دوست داشتم تست بیشتری دو تا تست دوست دارم که انجام بدیم تو بحثه شخصیت و ارتباطات و اگرم بشه که اون عرضیابی که شما از من دارید حالا خودتون میدونید چه؟ آیه می تماییه به من بگید ولی عرضیابی که من از شما خواهم داشت همینه که با من مشارکت بفهمید که به خاطر که هم من در واقع کلاس ها باید یه جورید دو طرفه باشه و من هم بیاموزم اگر فقط یه طرفه باشه من بخوام که تجربه اون درخ شما بذارم خیلی خوش من نیست مطمئنن من خیلی لذت نمیبرم بحثای شما، کیسای شما میتونه به من خیلی کمک کنه که من همچگاه کنم این سلاصت روانم رو خلاصه به کار بندازم منم فکر کنم نماد مسایل شما بعد یک نکته هست که میتونیم یه پاوری اضافه کنیم یه مقالهی رو به شما معرفی کنیم حتی قرآن این کار رو انجام بدیم. خب دوستان این پاور را چجوری در شما قرار میگیره پاورپون مطلب <تصفيق> حالا من فقط اگه یه خواهشی بکنم تو زبونه آنتراک اسم فامین اسم شرکت اگه شما شماره موبایل به من خیلی کمک میکنه و آدرس ایمیلتون رو بدید که من هم بتونم در واقع گاهی با شما ارتباط داشته باشم یکی از دوستانم وظیفه اینو داشته بود که من فقط برای اون بفرستم همه موارد رو من به مؤسسه میدم قبل از اینکه بیام سر کار ولی بدم که اون فردا تا همین امروز فردا برای بقیه بفرسته مرسی پس مسئولیتش رو آقا نبید شیبانی برای اینجا داری سیلا اینجا وجود داره برای بله؟ تو خود باید بید. اگه من که پیج دارین، گروه بله. داریم اونجا رو میتونی استفاده بکنید. بله. بله. اطلاعات ما توی یه صفحه اینجا توی مؤسسان هست. توی بله. یه صفحه رو میگیریم خدمت بله، خیلی من خواسته بودم قبلا به من دادن که ندادن، حالا به هر نحو. ایمیلتونم هست، ایمیلتون هست. ایمیلتون خیلی مهمه. هم هست که میکنن خودتون باشه چون من وارد این شبکه ها نمیشم. حالا استاد، نه، الان واردش یه ولی تو آنتونالتون در معرضش با هم صحبت کنیم ولی بریم سراغ اجازه میدین که وارد بشیم چای میخواین دلتون چای میخواد نه حقش کنید اخ نکونید سر کلاس من اخ نکنید چون حس چیز میدین منفی به من میدید خوشحال باشین شاد باشین لبخند بزنین چون اصلا بحث ما بحث رفتار سازمانی هر چی شما خوشروتر باشه زیبایی اثر داره زیبایی ظاهره که حتما اثر داره که افراد مشتریاتون حتما تو ارتباط با هم میگه. ولی دوستان بیش از اون اون حس خوبیه که شما به دیگران میدید یعنی همین لبخن همین چهره مهربان چهره شادا بهتون میتونه بسیار تاثیر گذار باشه. چون منم سعی هم که اینها کار رو انجام بدم شما هم متقابل واکنش های ممسلم ش انجام میدید. اگه در مورد درسنامه بحثی نداریم. بریم که با همدیگه در واقع مباحثمون رو شروع بکنیم. درسته؟ درسته؟ چی نخوانیم؟ خوام صفحه بعدی برم نم اینجا این موسی اینجوری. رو آه آره این رو نه آخه خوام صفحه به صفحه برم صفحه یا پایین فکر میکرم برای صفحه, صفحه این نه... نه این اینجوری میره یه اینجوری میره <تصفحه> اینجوری میره <تصفحه> آه او اصلا خلاص کاری بعد از کردی؟ کاری نه بابا یه دو آجر هم داره اینجا آ اینجا آی چی آقا حمید خوب نیکس حالا منیم نه میدونید، من نمی‌نمونون خود اینو کامل شما ببینید این الان ال رو استاد بزنید فول میشه، شه ال خب همون دیگه من الان جا اون چیزاشو نمیبینم ببخشید چون این چیزاش مشخص نیست هر کسی به لپتاپ خودش عادت داره رو چشمش خب چیکارش ببخشید منم آدم بزنم خب našol چرام خواهش کنم آقای شیبانی از شما اونجا بشینی چون اونجا شما میبینید لازم نیست جسارتی نمی ببینید لبش رو چی چیکار کن خودت تکیه نده ولی میتونی بشینی به خاطر اینکه من خودم نمبینم اونجا رو بعد. اونجایی که می‌بینی که اونجا رو من دیدم. فقط صدا عوض کنم. چا؟ صدا عوض کنم. من اصلا عادت ندارم کسی رو دعوا کنم. چه دعوا کنم وقتی مامانم گفته مامان کنی؟ ها؟ عفر. چه دعوا کنم؟ ما دره بعد جملات این ای جملاتی هم که قدیمیو میگن نمک زندگی به اصلا باورنکردم. هیچ خبرایی خبرهایی همیشه آدم آره با صحبت با در بیان زیبا و شیوا و استفاده از کلمات محسر و به شیوه تکنیک اینو برای چجایی با همسرتون مخالفت کنین؟ با مدیدتون؟ شما اونجا نیشه هسته ایده چه کار مخالفت ساندویچی کنین؟ ساندویچی یا همبرگیدی بالا ديسمونو یادام بدهن. مخالفت با همسر، با مدیرمون، با همسرمون، با کارکنانمون، با همسریه رو بشه، با, با مدیریه بشه. همشونو میتونید از یه تکنیک استفاده کنید. تکنیکی شما به شیوه مناسب با, با, با ادمو مخالفت کنید. یعنی چی؟ نه. یعنی که اولا وارد دعوا نمشید، وارد مذاکره میشید، با هم صحبت می‌کنید. وقتی دریم با هم صحبت می‌کنیم، یه نکاتی رو از حرفمون فرق، مورد تاییدمون به هر حال هست. همه حرفاشو که مخالف نیستیم. یه چیزایی توش می میتونیم که نه باونوانی تایی این بحثی که شما گفتید برای من خیلی جذاب بود. حالا موفق مح... نیستیم ما، درست؟ ولی در مورد تو زمینه رفتار من یه جور دیگه ای نگاه میکنم شعبان. با یه نگاه دیگه. ببینید، دارید مخالفت می‌کنی. دارید من یعنی اون صحبت منو میذاره که صحبت خودتون رو مطرح فقط کافیه که شما بتونید با هم دیگه به شیوه درست چه کار کنید؟ ارتباط برقرار کنید. از کلمات مؤثر استفاده کنید. با تو صحبت باید. می‌گید بله مسئله که شما می‌گید آمار و ارقام همه همین نشون نشونده ولی من اومدم با یه مسیر دیگه حالا شما نگاه کنید بررسیش بکنید یه مسیر ای رفتم و این نتایجه گرفتم دا. دارید در واقع یه جوری اونا را زیر سوال میبرید ولی یه بحث دیگری رو دارید ماشالله جون چی شد اوکی, اوکی، آره،, آره آره اوکی خب شما مشکل ندید اونجا بشینید من بشینم خب نه اینجوریه پس یه کاری که ما اینجوری بره نا. یعنی صفحه به صفحه درست میشه؟ آها خوش آره برو. مرسی. بودجلوه مرسی. دست. مرسی. آره آره دست درد نکنه. آخه مال من پیج بدیم نداره. مرسی. متشکر. خیلی محبت کردید. اینقدر خوشم میاد همیشه آیدی من کلاس داشته بشه. خب دوستان، ببینم بفرمایید که برای چی مثلا بخواهیم بریم رفتار سازمانی رو که سازمانمون مطالعه کنیم؟ با توضیحات قبلی هم که داده. نظرتون چیه؟ تأثیر بیشتری بذاریم اصلا یکی از منظومات یک سازمان هستش که توی اون رفتار سازمانی حتما بررسی بشه و انجام بشه و به شکل مطلوب باشه خاص اون سازمان بره. درسته؟ هر سازمان متفاقه ما میخواییم بریم که اصلا رفتار هر سازمان رو رفتار افراد رو گروه رو تو سازمان مطالعه بکنیم به جهت اینکه دوستان میخواییم که سازمان بهبود پیدا کنه وقتی با روابط کارکنان با مدیرشون روابط خوبی باشه آقای کازمی عزیز عملکرد روی عملکرد کارکنان تاثیر میذاره روی ارزش افسوده عرض کار شما محصولی رو که پخش میکنید ارای خدمتی که دارید میکنید درسته چکار میکنه تأثیر میذاره حس ما در واقع برای که یه سازمان اثر بخش داشته باشیم و در واقع سازمانی داشته باشیم که این انتافو داشته باشه که مدام بهبود پیدا بکنه دنبال این هستیم که چیکار کنیم رفتار سازمانی رو مورد مطالعه قرار بدیم این رفتار سازمانی رو مورد مطالعه قرار بدیم یعنی چی رو مطالعه بکنیم گفتم ما تو صحبتام رو خانم گلم برو چای بخور برو برو, برو یه چای در خود بیا برو من وقتی میواندن پاپوچینو خوردم حتی من از چهار بیدارم، من مثل شماها نیستم که هم خواب به دلتون بخواهد مرزو. خوب نیست خوب نه بی... چیز بدنی می رفتی؟ یعنی که خسته باشم بدنم بیشتر از مثلا چهار پنج ساعت خواب نیاز نداره مینیموم هفت ساعت تا عدمت بخواهد هفت من. ساعت شما جونا نه همه اینکه انا ساعت بگم هفت ساعت بگم هفت ساعت کامل <تصفح> بله بله هفت ساعت کامل من مطولی عزسته هستم. پنج خب جاه روبی ولی من مثلم انجامی می بینم فیلم را من برکس جا روز بر جوی هم می خب, خب دوست من گفتم بهتون ما در واقع میخوام سه تا سط رو بررسی کنیم. یه بحث فرق هست گروب یا تیم و بحث بحثسط سازمانه. حالا نگاه بکنید گفتیم ما چرا در واقع میره توی ها رفتار سازمان رو بررسی کنیم چرا آقای ربی آقای غنی. ربی درست می‌گی چرا شما مخاطب کارگراز توی کارگاه چی باشن بهترین تعامل داشته باشن بهترین نگاه و رضایت از شغلشون داشته باشن برای چی بخاطر برای چی برای اینکه ارتباطشون آسر باشه با آره ولی آن... رو کل سیستم سازما باشه یعنی چی؟ یعنی که حواستش جمع باشه که این شیرینی حالا تو این دستگاه با اون کیفیت لازمه چکار کنه با مواد تازه، مواد اولیه، اگر جای خراب شد، اونا رو بررسی کنه برای چی چه تأثیرش روی اون در واقع نهایتا شماست و مشتری شما در نهایت تو حاشیه سودتون چیه تاثیر داره. پس ما میخواهیم ببینیم که رفتار رو توی ها بررسی کنیم شو در نهایت تو کل سیستم ما چی اثر اثرزه. و ما دنبال 이게 سازمان چی هستیم دوستان؟ اثر بخش. درسته اصلا برای همینم هم امروز اومدیم می‌خوام خب خودمون آدم مفید و سازمانم سازمان, سازمان بهتری باشه یه دلیل دیگه هم داره تو این بازار پر رقابت که این همه شرکت‌های آیتیه ما نمی‌خوایم از داشته باشیم یه مزیت رقابتی داشته باشیم مطمئنا یه روزی می‌گفتن آقای کاظمی بحث محصول امروز میگن سرمایه های انسانی امروز صحبت صحبت سرمایه انسانیه شما هرچی سرمایه انسانیه و متناسب با شغلشون توامنتر متخصص اگر کارگر کارگر در واقع متخصص و ماهری باشه تعهد سازمانی داشته باشه اگر مدیر میانی هست مدیر در واقع کسی باشه که های مدیریتی بالایی داشته باشه آدم مسئولیت پذیب شه دارای اخلاق حرفی و مسئولیت اجتماعی باشه درست؟ خیلیت دستیم دیدم که آخی خانم به سمیر خانم خان مزنوزی داره خمیاز نمیگه گفتم یه چای بخوره معلوم میشه که خلاصه‌ای از زر صبح جمعه 500 وقتی که رسوم آدمای شارکو پویا میخوان برای همه همه تو آزادی هر وقتم خاص شدین به من بگین هر وقتم خواسته تو خودتون رو کش و قس اینجا هیچ مشکلی نیستش خب پس ما پ دنبریم هستین که سازمان به هر و برای اینکه بتونیم با رقباای خودمون رقابت سازندگی داشته باشیم با همکارای خودمون بتونیم در واقع خدمت بهتری را به جامعمون یا حالا امکان بیزینس بازرباری داریم در بین المللی تعاملات بهتری داشته باشیم پس هدف ما از این مطالعه این که سازمان اثر بخش و بعد اینکه بتونیم در با رقبای خودمون چکار کنیم رقابت کنیم پس دنبال یه مضیعت رقابتی هم هستیم یادتون باشه یک گوشه یادداشت درش کنیم دوستان امروزه مذیعت رقابتی هر سازمانی سرمانهای yes. من خیلی دلام می‌خواد که تو های مدیریت سرمایه های انسانی بزنم ولی چون کلاً توی کتاب‌هایی که ترجمه شده و در شما مقالهام چون مدیریت منابع انسانی یا مدیریت نیرو انسانی مطرح میشه ولی واقعیتش اینه که بحث‌هایی که 2000 به بعد مطرح شده مدیریت سرمایه‌های انسانی یعنی اینکه آقا جان شما رو من سرمایه می‌بینم من پیشنهاد دادم به یکی از شرکت‌هایی که در واقع شرکت های بزرگ هولیدی هست خیلی دلش بخواست که ساختارش رو یه حدود دو سالی هست، مشاورشون هستم بهش که تا جایی میتونی از این کلمه استفاده کن همش به در واقع مجموعه بود شما سرمایه های اسم واحدتو حدت بذار چی مدیر اصیه سرمایه های سای. چون حسه چی میدیم؟ بزرگ بودن به در واقع که ارتباطات، هرچی شما به همسرتون حسه بزرگ بودن بدید با فرزندتون. وقتی صحبت بهش بگی تو می‌فهمی دیدین مادر پدرها تا 50 تاشون دیگه نمی‌فهمن هی بابا من 50 سالمه خودم سی سال دارم کار میکنه. آدم تو یه آدم اسمه. ولی پدر مادرها تو الفوزش میگه شما دور از شما شما نمی‌فهمی هم؟ برای همین اون حس بده بودن ولی آدم‌ها که با بچه‌شون جوری صحبت می‌کنن میگن که خانم رایس وقتی که در واقع کودک بود این پدرشون ایشون رو میبرد و دور کاخ سفید یعنی وقتی به ببردش مهد مسیر خیلی دوری رو میرفت ایشون رو میمورد و اونجا میچرخون بعد میبرد مهد ایشون می تو یه روزی بعد جا کاره سوزن را تو یه روزی بعد اینجا رو بچه ای که تو مهد بوده پس رفتارمونو با بچه همون نه شما نه وقتی رو با بطه درست کنید، خیلی مهمه، برای همین هم هست که شما میبینید، ما خیلی وقتا جوان ها از ما فاصله میگیرن، میرین پسرتون رو میارید توی بیزینس خود اداغایی کاشا رو پسر پسرت یه ساز میزنید، شما همه دیوونه میشن، از منشید، از نمیدونم کارکنان از کارگرات، از هر کسی که باشه، منشید، چرا؟ چون هم قبول ندارن، با هم هم فکر نیست چ یه هدفن تو سازمان ولی هم بودنشون نیاز داره که تعامله به زیبایی اتفاق بیفته. خب دوستان پس بنابراین دیدیم که چقدر برای ما مهمه. ما برای اینکه به این موضوع دوواقع ورود پیدا کنیم توضیحات لازم و خدمت شما دادم. بر میگه که چرا میخوایم که سازمان رو بهبود بدیم؟ چرا میخواهیم سازمان اثر بخش باشه؟ به خاطر که من آقای ربی به عنوان نیروی شما برای خودم چیکار کار میکنم؟ دارای بحروری هستم بازدهی کار هستم حالا شما دوست داریم بحروری ده چی باشه؟ چ کی پایین میخواد؟ نداریم اینجا خدا رو شد. دوست داریم که کارپنان تو غیبت؟ ولی واقعیتش که داری نیاز داریم که ما مرخصی بگیریم ولی واقعیتش داری دوست داریم خیلی غیبت نکنن خیلی تقاضای جابجایی از ما نداشته باشن ولی اینا چیزهایی هستش که افراد توی سطح فردی باهاش شما درگیرید اولا فرد میخواد بهش توجه بشه رفاه میخواد نیاز به ارتقا داره و حس بکنه در آینده توی بیزینس شما توی شرکت شما کجا هست برای همین میگیم آقای کاشانی گاهی نیروی انسانی تو سرمایه پرواز بده چون دیگه اون در جای آخرش رسیده شما میگه ببین دیگه من جای این جا اینجا بالاتر اگه مدیر شد دیگه بالاتر از اون ندارم باید بیا سامدانه من بشه که من نمیخوام ها بیزن هم تقسیم کنم پس بنابراین میگه اجازه میدم بره برای خودش کار بکنه ولی تجربه تو محیط شما، آزمون و خطا تو محیط شما انجام داده. پس تو سطح فردی ما میخوایم که این فرد رو علاوه بر که رفتارش رو بررسی می‌کنیم بهش کمک کنیم اگر اشکالی داره اصلاح کنه، می‌خوام در واقع بگیم که تو بحث‌های سازمانیمون اگر سازمان رو به پیش رفتیم، دست به سینه نشینی. دست به یعنی حالت تدافعی داره. زبان بدنتون صافم بشینید چون کمالتون در حدیه که کاروسا هم با هم کار کنن. اینا که میگم همش بحثای علمی داره. تو مذاکره نوع نشستن شما بسیار مهمه. درسته؟ الان آقای کاظمی به منو شخصیتم احساسیه تا حدی. حالا بهتون میگم رابشش. خب بنابراین این همه نشستن شما یعنی مگر به شما باشن یا این برای میز واشن به حتی دست قفل کردن شما توجه می‌کنم چون تو مذاکره به من کمک می‌کنی. درسته؟ و اون چیزی نیستش که شما الکی هم این بر اون کنید. یه قاعده خاصی داره برای این دست رو دست گذاشتن. خب. حالا شما تفسیرتون چی از این الی کرد؟ یعنی همکاری؟ نه. <تص> نه دارو بهتون میگم نه اون مدلی که در واقع حالا تو میگم یه باید میگم ببارد آقای مهنده هست خب نه آقای کازمی وقتی که دستش رو گفت کرده بود نه آدم عوض میخواهیم آدم بیشتر دنبال بحث عقله عوض کنم آقای کازمی چشام چپی وقتی که شما این دستش رو قفل میکنیم این شستتون رو یا میارین روی شست یعنی راست روی چپ الان چپ انجام قنا حالا انجام میدیم اونایی که راست روی چپه بیشتر آدمهایی هستن که معقولا دنبال عقل و یعنی هر چیزی اول با عقلشون ولی اگر که چپو رو میارن روی راست بیشتر ادمایی هستن که با قلبشون تصمیم میگیرن یه کمی احساسا هیچ اشکالی هم نداره هیچ اشکالی نداره وقتی بدون تیپ شخصیتیتون چیه مثلا این که داره من آقای کازمی که یکم تو چارچوبیم یکم کمی تو با عقص تر کار داریم جنباه های احساسی یه،, یه زده بیشتر کنیم تو کار بچه ها نه از خواهی می میگه آه دا هم نگاه مشکلی <تصفيق> من بود رفت میشیم من از <تصفيق> نه راست روی چپ میاد چی میشه در واقعه؟ فرد بسیار فردیه که مباحث رو آقلانه میبینه یعنی با بحث عقلانیش در واقع میگیره اونایی که چپو رو حالا کدومتو احساساتی بودیم؟ روزت رو آها، آها، خب شماها یادتون باشه هیچ اشکالی نداره ها چون این شخصیت شماست فقط تناکاری که باید بکنی بحث اقلانی رو یکم بیشتر بیاری، تو کارتون تو انتخاب همسرتون تو برخورد با خانوادتون خیلی مهربون خیلی احساساتی تصمیم بگیرید بالاخره امکان داره یه جایی شما رو چکار کنه یعنی خطا بکنید من داشتم مدیر بازاریابی که چون یکم توی قضیه بحث احساساتی در واقع نه اینکه دکترا داشت و ادمه بسیار توام است تا فوق لیسانس انگلیس داشت ولی اون بحث روی رفتارش تاثیر میذاشت روی رفتش با کارکنانش اگه می‌گفتیم یکی رو اخراج، اونم خود دم دم خودش همینجوری چیکار کرد اش می‌گیره. در صورتی که خب اگر که باید طرف شما رو از محیط رو باید خارج بکنیم کارش کنه، حالا می‌تونیم کار براش پیدا کنیم. می تونه توامندی‌هاشو بهش بگیم و بهش توصیه کنیم که برای در یه حوزه دیگری مشغول به کار بشه. اگه تو سازمان ما نمیشه جای سازمان دیگر. خب پس بنابر این ما دنبال این هستیم که افراد خودش رو بهتر بشناسند و بتونید ببینیم که چه واکنشی آقای لاواقه کاشانی نسبت به بنده انجام میده و بعد بتونم در با این تغییراتی که خودم تو بدم ایشون رو چیکار کنم کنترل کنم. بحث کنترل منظورش اینه که مدیریتشون کنم. درسته مدیریتش رو کردم. الان اینجوری که همه نگاه کنین آقای ربیع رو، همه برگردین آقای ربیع رو نگاه کنین، الان آقای ربیع وقتی اونجلو و یکم اینطوری نشست، داره میگه من روح بحث سرام چی میشم؟ متمرکز میشم و دارم به های شما گوش می‌کنم. حتی امیدوارم نخوابه تو کلاس. خب ببینید دوستان این بحثم آوردیم، گفتیم که آجا همه اینا اینه که این فرده در واقع با بحث چی در ارتباطه اینکه کجا کار کنه، با چه شرح وظایفی، غیبتش کجا باشه، از شغلش رضایت داشته باشه یا نه، جابجا بخواد بشه یا نه، انتقال پیدا کنه، ترفی بگیره و بعد چه رفتاری با گروه و تیمش داشته باشه و همچنین در سطح سازمان با چه فرهنگ سازمانی، تو چه فرآیندهای سازمانی سازمانی که خیلی صمیمانه، سنتی داره میشه یا یه سازمانی که چیه خیلی چارچوب دار، قانون من مثل آیتی من منا، چیه سیستماتیکه، همه کاراشون مشخص، ها، آدم مهندسا اینجورین دیگه. اصولا اگه نگاه بکنی، بحثای مهندسا اینه که خیلی توی چارچوب قرار میگیرن، کمی خطی فکر میکنن توی سازمانشون هم دوست دارم همه چی نظم و ترتیب داشته باشه. ولی اگر که نوپا باشه، یکم چیکار میکنیم همون اون و ساختار را در مرمده یکنی که بیدیم جلدتر بسترش پیدا میکنیم بعد در راستا چیکار میکنن مشاور میگیرن یا خودشون میرن دورای MBA میگذرنن و سازمانشون رو در واقع بهتر میکنن بهبود میدن نگاه کنید یه تعریف کلی، دوستم من رفتار سازمانی بین و رو چرا آوردم و حتی کتابش رو به شما معرفه کردم چون امروزه، چون بحث تولیدی تو ایران داره کم کم از بین میره یعنی شرکتها ها و سازمان ها که که در واقع اهل تولیدن، اون دشوار مشکل هستن رفتن همهشون یک کار بازروانی میکنن، یک کارهای دیگه متفرقه انجام میدن اونایی که کار بازرگانی می‌کنن، با شرکت‌های مختلف در تعامل هستند، باید بدونن که این رفتار سازمانی رو اون موقع توی بحث‌های بین‌المللی یک کمی گسترده‌تر هست و بعد اونجا برن حالا سازمان‌ها رو ببینن که در, در واقع سراسر سر جهان چه مباحث رود دل خودشون دارن یه سازمانی که امریکایی یه جوره، یکی که چینیه یه جوره، یکی سازمانی که چندگونه است. یعنی فرهنگ‌های مختلفی داره. یا یعنی توش انواع اخسام آدم آفریقای جنوبی کار میکنه، استرالیه کار میکنه، فلیپینی کار می‌کنه، چینیه کار می‌کنه، که یعنی ایرانی داره توش کار میکنه. یعنی شامل فرهنگ‌های مختلفی. پس رفتار آدماش هم؟ بسیار متفاوت خواهد پس من توی رفتار سازمانی میگه ما مخوایم یک مطالعه سیستماتیک منظم روی فرد داشته باشیم چون این فرد که توی سیستم سازمان ما داره همه کارها در واقع توسط اون انجام میشه درست؟ پس چند تا سطح رو داریم تو سازمان ما برسه قرار امیر حسین؟ فرد. بله بعدش گروه بله کل سازمان متشکرم. آقای ابراهیمی اعظم چرا داریم رفتار سازمانی رو ما در واقع تو سازمان بررسی میکنیم؟ برای دانه بردن اصفر بخشی؟ برای اصفر بخشی سازمان تش دنبال چی هستیم؟ او هاشی پوله، هاشی سوده های. یعنی که بتونیم چی ایجاد بکنیم؟ تمام. تمایز ایجاد کنید دقیقاً احسن بتونیم مزیت رقابتی ایجاد کنیم تمایز ایجاد کنیم بین خودمون و سازمان هایی که رقیب ما یا همکار ما هستند درسته آقای ربیع اعظم این همه قنادی شما میگی ببین من اگر بخوام از عباس آباد به بالا در واقع مثلا تو منطقه پاسداران قنادی کمه باید یک جور خود تو توصیه بدی، حالا نمیدونم شاید هم داشته باشی پی پیکا پی خیلی خوب، اونجا مثلا شیرینی فروشی یه دونه شروع اثر تو چار دولت یه دونه دم اون برج سفید، یه دونه چی؟ چین دانمارکیه دانمارکیه که خیلی خوشمذر بگه بقیه شینیه هاش مزخرا کن اومده تو انیر ابراهیمی یه مدت چند سالی باز کن. من اگر بتونم یه مغازه حتی شده یه زیرکلایی اونجا پیدا بکنم که اصلا بیرون بدم میتونم چیکار کنم بسیار درآمد خوب و حاشیه سود بالایی داشته باشم میرم مناطقو بررسی میکنم بعد میرم که خب از این منطقه به بالا چه شیرینی با چه کیفیت با چه قیمتی خریدار داره درسته یا مثلا اونجا میبینم دختر پسرای مثل نویجان جان خوشقیافه مثل امیرحسین خوشتی چیکار میکنم با دوست دختراشون با مثلا همسرشون که تازه ازدواج کردن با همکار میان تو کافی شاپ کیک های خاص اون مناطق رو میپزم و به کافی شاپ های اون منطقه میدم ها یا توی شهرک غرب توزیع نیم نگاه میکنم پس بنابر این ما همه دنبال این هستیم که حاشیه سودمون رو ببریم بالا مزیت رقابتی ایجاد کنیم تمایز ایجاد کنیم چون رقیبای شما بسیار زیادند ولی یادتون مش قنادی ها حاشیه سودشون بالاست برای همین بهش گفتیم جابشینی بیار خب درست میگم آقای خب یه المانی هم دوستان داره میگه که به خاطر که تمام آدما هنگ کنگیه وقتی میره توی یه شرکت استرای کار میکنه یعنی چی؟ اینو باز نشسته میشه اون بدق و بق بق پول بقیه رو ببد من نار دعوت کنه پس چی معنی نداره ما این رویا بازنشسته میشیم یه دونه لو فرش میگیریم عکسزشو برتون نخوان تقدیم میکنیم به اون آدمه ها یا داره میره سازمان دوستش داری مدیر خیلی خوبی بوده مدیر تمامندی بوده بعد پلیس ها می دیدیم سازمان کنده <تصفيق> همه می دونگی چیکار کنیم یه کاری رو برای اون آدمی که دوستش داریم این متداول نیست درسته امریکایی ها مثل ایرانی ها می نماین کاری رو با آمریکا ها نزدیک فرگرا هستن خیلی وقت‌ها چیکار میکنن ساعت بیشتری رو برای کار میمونن مثل من من به شما بعد از کلاس فیلم براتون پخش می‌کنم برای اون که پولی نمی‌گیرم وظیفه ی نه دارم دوست دارم به این کار عشق دارم شخصیت من متناسب این شغله هان درنی کمی شما رو با این بحث رفتاری آشنا می کنم و امریکایی هم همینطوره ولی انگلیسی هم میگه نه بین زندگی شخصی و کارم با تعادل باشه یعنی چی یک تاموش یک بار دارم حتی شما اجازه میگی بفرشتید تایم تام شو خدا پس شما که سوال دارم تو بعد جلسه بعد. ها. حالا، این که خوب و بده، گفتم چیپ دوستان؟ خیلی عالیه. آها، برای انگلیسی اون رفتار مناسبه، برای امریکایی اون رفتار، برای استرالیایی اون رفتار، برای من شهبانی هم همین رفتاری که تم. اگر خوب نباشه چی کار میکنم؟ تغییر نگرش میدن، تغییر رفتار در خودم اینجای میکنم. خب میگه مدیر یا موفق هست بشتران توی بازرگان دوستان که در واقع بتونه رو این مبحث که اگر داره با شرقتهای مختلف کار کنه، اگر با چینی از فرهنگش رو خوب بشتاسه اگر داره با آفریقا جنوبی، مواد آرائشی، بهداشتی، میکروشه بتونه اون چی لازم داره؟ درسته؟ فرهنگ اونجا رو باید بشنازه اگر شما داره اون کشور، باید بدونی چه رفتاری کنیم اگر حالا خوش کجا یعنی یاد باکنشتشون میده یکی از دوستای من رفت تو دانشگاه با اولین همون ترم اول گه دختره چینی بود اینونیام که دیده خیلی بنو بر میره منم همینجوریام هم. مثلا منم الان مثلا اینقدره یه دستی هم به شونه ها به خاطر که ماها یه ذره احساساتمون هم روی هم خیلی عرف بعد نمیدونیم میدونیم چی میخوام مردون با هم رووسی کنم بعد برای شما این کارو تو آرمان کن و بهتون میگه معنی معنی بعدیه خب پس بنابرین گفتش من هم ترم اول دختره که بود با داشم باش حرف زدم و همجوری دشتر همف روز پاش که بسند این دختری حجور یه واکنش بسیار بد نشون داد ببینید پس ما حتی میخواییم اگر بریم جوان ترا میخوایم بریم احلای کنیم دوشترها بگیدیم بگیریم تسنس بگیدیم برای حتا یاده میتوشی کنیم اینجا یه ذره تو و را بریم. آیا من اگر بوبوسی کنم کار خوبیه با این پسر دست بدم خوبه با این دختر اینجور رفتار؟ یعنی باید چیکار کنم خاص اون فرهنگ رو چیکار کنم بشناسم توی رفتار سازمانی دوستان بحث فرهنگ خیلی بحث مهمیه بسیار بحث مهمیه توی کشور خودمون چیه آقای کاشنی؟ ما درگیری چه مسائلیم؟ تو رفتار سازمانی؟ تو بحث فرهنگ تو بحث فرهنگ؟ فرهن. کاشونیا مختصده ترک ها حتی واقعیتش هم ترک ها یه جور خاص رفتار میکنن بخوام تشکر خودش خودشه بین <تصفيق> دقیقاً میخواستم حالا بگم که اگر ما شرکت بین المللی نداریم تو خود سازمانمون با اسپونیه با کارگر لورت با ترکه تازه ترکه من با احسان ترکه زنجان داریم ترکه تبریز داریم ترکه ارومیه داریم بین خودشون همه ترکا با هم شما باید جا اسفحان هم میگم تورک داشت حالا با خود نمیدونه با خود اسفحانی‌ها، کرمانی با کرمانی‌ها، شیرازی با تب... شیرازی‌ها حالا شیرازی‌ها و کرمانی‌ها خیلی کمتر مسئله داریم ولی به طور کلی بیم اینجوری بگیم با منطقه شمال ایران، جنوب ایران، قرب و شرق ایران هم باید <تص Rep��'vepro begun> بدونیم که چجوری رفتار دار بکنیم برای هم شما پسر جوون نحوه هر شوخی رو که هر جور کنه ببین چون من کلی که همکاراتم نسبت به جایگاه ملی خودش محلی خودش چیکار کنه ناراحت چه چون عرق داره ناراحت چه بعد هر هم سری همین بپرسم اینا راستش شما شمالی این چیز که شمالی هستید میخوان <محسن> یه که <محسن> مضحک ما، بخاطر ما توصیه هم اینه که شوخیتون در حد یه طنز باشه نه جوک در مرابطات کاری و ارتباطی چون دوستان جدل یک جزله آوردم بخاطر اینکه خیلی بحثش بحث ساختاریه یعنی ذهن تو ساختار پیدا بکنه که تو سطح در واقع فرد، گروه و سازمان ما چه نمید چقدر های مختلف درگیره روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، علوم سیاسی، مردم شناسی نگاه کنید چرا به خاطر اینکه بحث بحث چیه؟ بحث رفتار کی؟ باید. باید. شما هر جا دوستان با قرمز مینیمسن با این که طرفی موضوع پیچیده میشه شما همسرتون 20 هم ساله باش زندگی میکنی یک کاری میکنه تو بیست رو یک ساله میکنه شوکه ببین شکه شدم باید. یعنی این اتفاق پدرتون تو هفتاد هشتاد سال که حداقل دقیقت سال باش زندگی یه چیزی میگی بابا گرب دری، یه چه هفی رو جمعسای؟ این جمعز یعنی یه کاری مکاری که هیچ وقت تو زندگیش، برای همین چون انسان موجود بسیار پیچیده‌ی برای همین هم هست که دوستان، علوم مختلف درگیر هستند. هوذهاهاش رو برای تو نوشتم. وقتی داریم تو بحث فرد صحبت میکنیم، بحث لغوشناسی چرا میخوایم بدون شخصیتش چیه؟ میخوایم بگیم که در واقع این فرد چه در واقع درکی داره، چه نگرشی داره، چه هایی داره. و همش تو کارش، آیا اهل تنش هست، آیا آدم عصبی آیا بلد خشمشو کنترل کنه، همش برمیاد به مباحث چی؟ رفتارش. نگاه کنید تو بحث جامعه شناسی رو ببینید. داره میگه که تو بحث جامعه شناسی توی گروه، میخوام بدونم گروه چه رفتارهایی بین خودشون دارن. دیدین؟ اونایی که سازمان‌های بزرگ دارن، شاید تجربهاش همه‌مون داشتی. میگن گروه زیرزمینیه، ارتباطاشو. یعنی خود مدیر سازمان میمونه. دیگه ببین، ما حتی گروه گروه هست. تازه شما درون سازمان، من و سمیرا خانوم و آقای کاظمی با هم میشین می‌خوام یه بیزینس با هم کنیم. مثلا یه بیرون. یه ارتباط بیرونی ستایی با هم دیگه داریم. یعنی خیلی وقتها این گروه‌ها و تیم‌ها که ایجاد میشه توی سازمان، یه بحثی درون سازمان داره، یه بحثی بیرون سازمان داره که هر دو تاش خوب یعنی به سمت خوب، مثبت یا به سمت منفی خاص اون شرکت ببینید خاص اون شرکت باشه بحث این بحث طوری ها ساسی سر سر مرتب فرهنگوین هم که همهش برمی گرده به بحثای سازمانی که گروه باش درگیره روانشناسی اجتماعی رو نگاه میکنیم برای گروه توی بحثای تغییر رفتار که میگه دوستان کی تغییر میکنه رفتار ما کی فکر میکنی اتفاق میفته همس ما میلمون رفتار نکنه نه نه ما زمانی یادگیری درمون اتفاق میفته که این یادگیری توی رفتارمون مشاهده بشه یعنی ما در دنبال تغییر توی رفتارمون هستیم توی رفتار گروهی هستیم و ببینیمش برای همین گردی آموزش که الان داریم با هم زمانی اثر بخشه که شما مثال می‌زنم بعد از 4 جلسه هیچی هم اگه یادت نباشه بگی که مدیریت استدادا پا برمون این موضوع هم همکارا فکر کنم یا ببین این شخصیتی که من دارم متناسب شغل که انتاب کردم نیست با یه فکری برش بکنم اوکی نیاز دارم که زندگی به چرخه ولی باید حتما کم کم خودم سوق بدم بودم با اون شغلی که متناسب شخصیت منی و همچنین بحث مردم شناسی که باز همین را تو بحث‌های اون فرهنگ ملی و محلی و بین‌المللی و علوم سیاسی که در واقع برمیگرده بین اون و سیاست‌هایی که حالا تو بحث‌های درون سازمان یا سازمان‌های بین‌المللی خیلی درگیرش هستیم برای همینم هم هست که مثلا ما میدونیم که وقتی اوضای مملکت ما به این شکلی که الان هست اگر که بحث‌های هستی مطرح بشه، اگر یه موقع روابط با ایتالیا بد بشه، من بیزینسم توشار مشکل میشه. تماماً با چین توشان مشکل میشه. تماماً با یه شرکت دیگه ای که حالا از نظر سیاسی در واقع دولت باهاش تمایل دیگه نداره مراودات داشته باشه روی بیزینس من چی میذاره؟ تاثیر میذاره پس نگاه میکنیم میبینیم که در این سه تا صد دوستان علوم مختلف در واقع درگیر هستن. پس ما یه بحث خیلی کوچیندی در مورد انسان داریم. دوستان من اگه ازتون خواهش هم تکرار کنین چون تمایلم اینه که چیزی رو حفظ نکن کنیم همین اینجا دوواقع با هم دیگه بیاموزیم خب آقای روی از بفرمایید تا الان هرچی رو که به ذهنتون میرسه که برای شما خاص شما مناسب بوده الان تو ذهنت نشسته اما مطالی که از صبح گفتیم اینکه من چیزی باید با کارمنم یا با خونه منظلم برچه ها چه جوری بکنم چه تیپی رو بگذرونم که چجوری میتونم باشون ارتباط برقرار کنم بله که بره بریشون بله بارجر. و برای سازمان در واقع عرض شخصوده ایجاد کنه بله. خانواده هم یه سازمانه دوستان دانشگاه ما هم یه ساعت ترمی که توش درس میخونیم، ما هم سلیم میخونیم اما این حسین، اون تیمی که داری با هم میخونیم، خودتون یه سازمانی در واقع حتی یه قاعده، یعنی شما میتونی کل اون گروه ها چی کار دیگه چی آقای کازمی؟ چی برای شما مناسب بود تا الان صحبت کردیم؟ توی این بحثایی که انجام دادیم؟ خب، نکات خیلی مثبتی من گرفتم از شما خدا رو شکر. بینه که رفتار باید یه طوری باشه که ارتباط یعنی اون کسی که اونجا کار میکنه رفتارش با من، رفتارش با ارباب رجوعی که داره مثبت و خیلی خوب باشه که بتونه یه منافع بیشتری رو برای من اینجا بله، فقط درست بفرمایی؟ ببخشی، فکرم تمام شد، از خواهی تقریبا تبریمه بله، حالا فقط بحث ارتباطی نیست این ارتباطی از اینجا من نشأت می گیره. یعنی نگرشی که دارم درکی که از محیط سازمانندم، رضایتی که مدیرم دارم، ارزو که مدیرم میکنم سازمانم سازمانم چه جوری درک میکنم، درسته تعهد دارم یا ندارم، مسئولیت اجتماعی برای خودم قائلم یا نه. اگر آقای کاشان شما مسئولیتی برای خودت به عنوان مسئولیت اجتماعی تو درون سازمانت و بیرون قائل نباشی، از من که نیروتم انتظار داری؟ پس همه چی باید برای خودم اول مشخص باشه با به مدیر تا بتونم برای نیروهام چی باشم؟ مواره، مواره، خوری بله، ما آقای ما الگو باشم <تصفيق> الگو باشم چون تو بحثای یادگیری که همونطور که گفتم تغییر رفتار اتفاق باید بیفته دوستان، <تصفيق> یک بحثش الگو سازیه شما به عنوان یه پدر خانواده، خان... مادر خانواده، دختر خانواده الاخره یه الگوی برای خودتون دارید من همیشه به دانش میگم میگم بریم امروز ببینیم کی الگوی تو زندگی ما بوده دکتر حسابی؟ برادفیت؟ آنجلی جولی؟ نمیدونم هپی برای خوب بدم؟ چرا خندی دیدید؟ یعنی منظورم اصلا مهم نیست باز گفتم خوب و بد؟ نداریم من دلم خواهد یه الگوی خودم کنم دوست دارم که یه دانشمند و الگو خود افراد. یه روز امکان داره اونقدر مادرم برام عزیزه دانشمندی از آزار من مادرم الگوی برام بحثی کی برای شما در واقع الگو باشه پس بحث ارتباطی یه بحث بسیار گسترده است همونجورتی که شما درکی که از موضوع داشتیم خب از هر شخصی خصوصیت خوب ا اخلاقی مثبتی که داره رو که اون الگو غم می‌کنیم از بله. هر شخصی مثلا از انیشتن یا مثلا بله امکان داری این که ببینید مثلا چندینو آه... ببین الگو میدونی چه جوریه اگه تعدادش زیاد باشه براستون شاید سخت باشه دیگه متوجه یعنی ولی وقتی دو تا یا سه تا متمرکزین بهتره ولی اینکه شما حالا الگو که میدون شما میتونید از خوبی‌های دیگران رو بگیرید تو کلاس امروز ما خوبی‌هاش عشقش رو ست بشه برای شما یه چیزش آشغال یه چیزش تار بریزید دور اونی که برتون جدیده اونی که برتون مفیده در رو بگیرید رو ذهنتون بشیم. ولی الگو باید حتما تعدادش کمی که میگیم محدود باشه برای اینکه بتونید متمرکز بشیم. یکی از دانشپذیر من با اپرا برای من چون از خانواده سطح پایین هم بود که اپرا رو من برن برن بودم از اون روز با همصبحح برخر و شخصیتش خوشم میاد اما من خاانما اونم خانمه. ساعتش پایین می الان کجاست و اون چیزهایی که زندگیش تجربه کرده که من یک کدومش رو تا این سن خدا رو تجربه نکردم حالا مثلا تجاوز و چیزهای اتفاقهایی که بعدی که برایشون پیش اومده بود خب پس برنابراین البته میریم کاملا بیوگرافی طرف رو مطالعه می حالا من خیلی وقتا به دوستان میگم از خود جامعه ایران میتونید الگو بگیرید تا حالا هر جای که دوست داشتید یکی امکان داره بگه من یکی از ائمه رو مثل حضرت علی رو برای خودم نمونه قرار میدم یکی بگه که من یکی از رهبرام رو فیدل کاسترو رو نمیدونم امام خمینی رو بس به این داره که شما چی فکر می‌کنی هیچ کدومش هم گفتم خوبه بعد نداره خیلی خوب این سه تا ست هم امام حسین عزیزم توی سوالات برای ما گفت گفتش که ما سه تا سطح ست رو باید توی رفتار سازمانی مورد بررسی قرار دیدیم تمام علوم هم روی قسمت های مختلف از اینا چی بوده؟ تحصیل گذاشته. خسته شدیم؟ نه. نه کی خسته؟ دشمن <تصفح> خب کی خسته است؟ دشمن مکه شما داری من که ندارم؟ چی؟ زیاد؟ <تصفح> <تصفح> من ملومش این پسرا شیلتونی میکردن رفتن شیشه مردم رو شکوندن؟ <تصفح> یا اینکه به خواهده <تصفح> <تصفح> یه کسی یه حرفی زدن داداشی باینا زدن <تصفح> چون دشمن؟ درسته؟ باید خوشگلی خدا آه چه خوشیفه؟ دره شاید هستایدی یعنی ما حسانت میکنیم به خوشگلیش؟ دشمنشونی؟ دشمنشون دختره هستن دوست... که پیچونده مرسی آقای کاشنیم بچکم هرچی که خانوم زیهان باشم زبل باشم من خوشم هر چه معده ازیتون خوشش میاد از این کیسا طریقه آقای کاشی 100 دانش داخل کلیه آنترو درمانی مفاصل تلتون بخاطر کیسا باشه چیزی آقای کاشی جنبیه شیطون جوی این آقای کاشی اینجا برای ما یاد ما دیگه اینجا منو خانم صنم یاد بگیریم من از مسئولیت دارم نمیتونم نه ما اینجا پسر من آه نمیشه راست میگیم گوشهشو میگیرم بنده بذاره برمان هر شایدیم یک دست در بالا قسم بگواری که اینا نمیگرم متقلی کرد خونه نه شروع شده میگرم خوشبقتانه هزامه دوره ولی خوب درخاره شوخی میکنم ولی ده حالتانه بحث های جذابیه دیگه این تفاوت خوان ما آقاییم همیشه جذابیت ایجاد میکنه. خب دوستان یه اولوی اصلیی که قب... یعنی پدواده تو اون سطح اینجا به نیه سطح فردی منظورش این پایینه این سطح فردی، سطح گروه و سطح دواد سازمانه دوستان ببینید به تفصیل اینجا گفته گفته اینجا ورودیش انسانه که تو این سطح فردی با یه بیوگرافی خودشو خودش و خانوادش نوع شخصیتش، عرضش و نگلشی که داره، توامنگی هایی که داره، کامپتنسی که داره. ادراکش انگیزش خاطری فرشته تا توش رو توسعه بده که همه ما امروز اینجا هستیم که خودمون رو توسعه بدیم منجر به یه تصمیمی میشه یه رفتاری میشه که تو گروه میشه و تو گروه بین گروه و ارتباطات مذاکره تضادها حل تا ها و تمامی اون روابط بین و هیچ کار نمی‌کنه تاسف گزاره شما فکر می‌کنید در پنجره اینجا باز شه آقا ی برین و یخت نه با آقا باز کنه بسیار گرمه میتونیم این کولر رو چیز بفهمون رو فن آره میشه نه این باز میشه شما هر وقت یخ کردید آقا رادیم و آقای ایرانی به من بگید ببخشید ببخش. ببخش. چون هوای تازه وقتی هوا خیلی خفه میشه خابتون میگیره. سرده تو میشه؟ جون میگیریم اون موقع چه هوایی؟ <تصفيق> جون میگیریم من بیتونم ولی چون من یکم بلند خود هم خودش بلندگوه بعد مزاهم که الانش هم همینطور مزاهم هستی صدامو میره بیروم اگه در اینجا رو باز میذاشتم خب <تصفح> <تصفح> <می میبینید دوستان در این سر هم در واقع اون تصمیگیری های دروح میاد چیکار میکنه؟ وارد سیستم میشه که در اون سیستم شما این که ما چه بیزنسی هستیم که چه صنعت کار کنیم، چه ساختداری داریم درسته اگر بیزینس بازرگانی داریم یه جور عثور علل از افراد تو صحنه برخوردی یه جوری اگه تو صنعت سخت هستیم مثل خودرو مثل فولاد مثل نفت ها یه تیپ افراد رو می‌بینید شما یه فرهنگساز شما میره تو پارس جنوبی تو اصلیه یه تیب با یه در واقع مدیران و کارکنانی طرفی توی بچه که تو جنوب کار میکنن آدمان سختی هن. درسته؟ برای همین کارکردانم هم با آشون در این که خیلی مهره بونم کارکردانم خیلی راحت منو مناطقه محروم بهتر میکنه موضوع رو و پس بر حسب اون سنعر و اون نوع بیزینسه چه رفتار فرد و گروه متفاوت میشه چه تکنولوژی در داره در اون شرفت پیاده میشه از چه تکنولوژی استفاده میشه چه شغلای اونجا تعریف شده چه شهر شغلایی دارن درسته؟ تا اینکه میاد دوباره خروجیشون آدم است که حالا من چون اون سازمانی که هستم از کارم دوستان و رضایت دارم یا نه دوست دارم که گردش شغلی داشته باشم یا نه چقدر سازمانم رو دوست دارم صبح دیر میام از اون وزورد میرم هم هیقیت بعد تو فهمیدم مرخصی میرم هی مریض میشم هی بعد استلاجو چی و بعد اینکه در واقع دنبال این هستم که چقدر بازدهی مناسبی برای سازمانم داشته باشم و اول برای برند شخصی خودم و بعد سازمانم تا برسه به اینکه حالا من سازمان بمونم یا نه که امکان رو در واقع زمانی هم حتی سازمان رو یا ما رو ترک بدم یا خودمون سازمان رو چیکار کنیم ترک پس ولودیش انسانه خروجیش دوباره انسانه خب بحث فرهنگ دوستان فرهنگی که میگیم به من بگی چیه فرهنگ چیه بفرماید آقای ابراهیمی هست مجموعه از های یک فرده یا یک فردی که تو سازمانه درسته؟ یعنی من بر حضب چون فرهنگ سازمانی کی میسازه؟ افراد. افراد حالا مدیرانی تو بیزینس های کوچی است که میسازه اون اونه که قاعده رو تعریف میکنه فلحنگ سازمان کلاس ما چی بود؟ توی سازمانه که چند نفر هستیم؟ سه، چار، پنک، شیش، هفت، هفت، نو، ده، ده آها یه قوانینی رو بشت و یه چیزهای دیگه ارزشی عرضشی گفتیم باید توامل کنیم باید به همدیگه تجربه من رو بیاموزیم انتقال تجربه به هم بکنیم هم برای شما آموزنده باشه اینش هم برای من درسته؟ پس بنابراین ما برای خودم یه فرهنگ گفتیم اینجا اخم نداریم دست به سینه؟ نداریم نداریم دیگه؟ یه هرون میشه کتم رو بدم اگه تا در, در خودت خب، یکمی هوا تغییر کنم می‌بندیمش. ولی بپشید یه موقع سرما. هاش خب، پس بنابراین فرهنگ هر سازمانی در واقع شامل اون دانش عقاید هنر ارزش هاست و اون عقایده میگه بچه و مذهب توش خیلی دخلیل هستش و تحصیل میزه رو اون اصول اخلاقی، علم اخلاقی که توی هر فردی یا سازمانی وجود داره و توانایی ها و که افراد چه کار میکنن؟ اکتساب میکنن، کسب میکنن، از مدرسه، از دانشگاه، از خانواده، از جامعه این میشه فرهم میگه که چرا حالا این افرادی که دنبال بحث رفتار سازمانی ان محققاش چرا دنبال این بحثن میگه که به خاطر اینکه که دنبال این هستن که رفتار شماها رو درک کنن ببین من شماها رو باید درک بکنم هر جوری که الان نشستی ده حرف نمیزنی ببینید که سکوت کردی نه تو حرف اخ میکنی. خنده های ریز ریز میکنید مثلا من داشتم میگفتم این پیج اینا داش یه برداشتی دارم از خنده های شما مثبت آ من اصلا دنبال چیز منفی نیستم ولی من میخوام بگم مرچ کار میکنه یعنی همینجا من دارم در واقع رفتارهای شما رو یه جوری محک میزنم درست ارزیابی میکنم پس همه دنبال این هستن توی سازمان ها محققات دلیل رفتارهای شما رو در اگر یکی از همکار آقای ربی با اون یکی دست به یخه شد زد و خورد اتفاق افتاد دنبال چی هستی دلیلش ببین بعد کنی چرا این رفتار اتفاق افتاد این دو چرا با هم در جنگی چرا رفتاری تو مجموعه ما مجموع اتفاق افتاده اگر آقای کاشانی یکی از نیروهای شما رابطه غیر اخلاقی، یه خانومی با یه آقای اونجا پیدا کرد مال اون در ببخشو بچوها، من میخوام خیلی راحتی مسئول بگم چون مسئول اجتماعی ماست و ما باهاش درگیریم ما اینجا گفتم خوب و بعد نداریم، ما با من، میخوام بگم تو رفتار سازمانی این مباحث، ما الان تو ایران داریم همجنس باز ها ولی توی خارج از کشور بیشتره حتی این مسئله مسئله است برای سازمان ها که اگر کسی اونجا مثلا آقا هست همجنس بازه مورد تتحیل کسی در سازمانش قرار نگیره مشکلی مشکله ننداتونی کار کردن. الان هم تو سازمان ها رو درگیرش هست و خیلی چیه کمرنگ و پنهانه. پسا مدیر ندونه تو سازمان بزرگ که من وارد میشم وجود داره. خب کم رنگ حق بدونن خیلی کسی به او خودش نمیاره واکنش نشان شما نمیتونید وارد داخل به اون نگرش ها و چیزهای داخلی افراد درسته پس بنابراین ما میخوایم ببینیم که چرا این مرد متحر به منشی ما گیر داد و منشی ما هم باش اوکی شد. میخواین درکشون خارج از اینکه اصلا قضاوت بکنیم دلیلش رو ببینیم چییده. من از زندگی این نیروم آقای یا مدیرم اطلاعی نداشتم مشکلاتش رو پرسم اصلا شاید اصلا بخارم زندگی نمیکنه من در جریان نیستم بیانید برای همین پا بگم که یادتونم باشه ما مباحثو و دوستان چیکار میکنیم؟ ارزیابی میکنیم نه قضاوت کی با هر عقیدهی که هست با هر مذهبی که هست فقط یادتون باشه رفتار ما به عنوان فردی یعنی من خانوم ماشی، با اون آقای متحه نوارد با اون مباحث سازمانی از سر یعنی یه اون آقای من آقایی نه سازمان من پلیس سازمان سازمانبلی اینجاست که اون موقع ما رو درگیر میکنه و بعدا دنبال قضاوتش نیستید. دنبال ارزیابیش هستیم دو تا هم جنس باز یا یه نفر یکی هم جنس بود تو موقع ما که تو زمانی ورده یو ببخشید جسارت نکردم یه همکار دیگه من یه نیرو انسانیه مثلا نمی‌تونم بعد اونجا برای من دخلی نداره. فقط منم ارزیابی کنم موضوع رو ولی قضاوت نمی‌کنم. کو خب؟ اول این موضوع فکر کرده بودین با شف... اصلا تولد درگیر شدید سازماناتو شفت کوچیک بشه بیزینس خیلی کمپنی درگیره چون اون نفری که میون مثلا حالت نه امن ارتباط. ارتباطه ارتباطات دیگه مثلا داشته واشن تاثیر میزنه چون من تجربه کردن یعنی چی ارزیابی یعنی اینکه آیا این ماجرا چه تاثیر روی روند نیروهای دیگه من بزن. من سازمان من داره ولی به من اثباتی ندادن شما ارزیابی کنید شما دو زنه هستی، نستی؟ شما خانم متهمی، باز هم با کسی رو دوستی به ما، من... قضاوتش به من مدود دوست. ما ارزیابی می‌کنیم که این به سازمان ما اگر فهمیدیم و اگر چیزهایی رو دیدیم در مورد دنبال درک موضوع این براش ارزیابی قرار میدیم. چرا چون می‌خواد تاثیر نامحسوب رو سازمان من نظره و این موضوع ها البته میگم توی ایران خیلی سکرته، حتی آقای کازمی این موضوع که داشتی اشاره میکردی خیلی سازمانم زن و شوهرها رو با هم نمیبرن توی محیط چون هم اتفاق که گفتم بید. یعنی وقتی که با هم کار میکنن خیلی مشکلات بر سازمان ایجاد میکنن من داشتم من داشتم مثلا میخوام بگم الان من با نوی کار می خب هم سرشم تو سازمانمون من باقا با نین، زیر مجموعه من دوام تاون یا به حد دردی بالاخره کارش رو ارزیبی می‌کردم بهش تذکر. خانمش میومد میگفت شوهر برای چی به همسر حرف زدی؟ حقوقش رو کم دادی؟ بهره‌وری‌ش رو کم دادی؟ می‌دونی یعنی اینا با هم یعنی تشخیص نمیده بابا این یه شخصیت حقیقیه اینجا برای خودش. و بچوش اینجا دیگه زن و بودن شما به, زی... به مجموعه من ربطی نداره نه نه. درسته یا مرده مثلا من آقا بودم به خانم ایشون به هر دلیلی تذکرات میدم بگه با خانم من درگیر نباشه یا مثلا <مارد> ای بابا اصلا این شخصیت در واقع داره شما یه شخصیت یعنی این مباحثی که شما گفتیم من نمیدم درست فهمیدم یا چیز دیگر میخواستید بیدیم اصلا دو نفر لفاقتشون توی مجموعی که بیشتر میشه اتفاقاتی توی بله برای همینم میگن دوستان البته دوستانمون همه اینا رو در جوال ترا سمیراجون نمیتون آقای را بیگم نه حتی امیر حسین و آقای دوستان تو هم ما همیشه باید رابطه سرمیمانه داشته باشیم تو ارتباطات وقتات بیرون منظورم، بیرون از خانواده، بیرون از اوزا. ولی تو همها با جدیت برای هم نمیگم جوج سر تو ترید برای هم سر تون جوک های بد هر چیزی رو براش یه مرز و یه حدی قائل بشید. وقتی برا همسرتون چیکار می‌کنید بعد نفرستید؟ اون هم خوشایید نیست. میدونه چرا؟ اگه همیشه این مرز رو با همسرتون داشته باشین تا با شو باعث میشه که هر روز هم از هم دور با احترام از هم جدا باشید. یعنی پدر مادرای ما چرا مدت‌های طولانی با هم زندگی کرده و خودش رو زندگی خودشون هم. چون همیشه مثلا پدرنا خاص مامانه افسر خانم شون هم مثلا اصلا محمد عزیزم ما بچه ها غیر از این چیزی نمیشه نمیشه محمد عزیزم قاعدم باید حرفشو شد یه صرف استادوشون میرن باید. با هم دیگه حرفتون شد. باید داریم دعوان باید. نه نه. ما اصلا دعوان نمودشون. ما هم حرف میزدیم. ما قهری ندیم. یعنی این مرزه همیشه بین این دو نفر و برای همین هم میتونن که تعارضات همو هم رو حل مکنن. ها؟ کرایوکاستی های هم همدیگه رو میبوشوند. شما با همکارتون، با دوستانتون، با زیر مجموعاتون همینطور باشید. من بربخشید اگر در مورد مسائل زندگی تو هم میگم به خاطر که دوستان همون رفت داره ناپسند که متوت کار میکن تو خونه میکن شاید بدترشون. یعنی میخوام بگم که وقتی میخوایم آقای کاذمون استخدام کنی س ال به زینس جدیدی واردش میشیم میخواای استخدام کنی حتما شخصیتش تربی به خانوادهگیش مهمه یعنی اینجوری نیست که شما بوییم من چکاردار به اون مسائلش من نمیگم ریز بشی تو زندگیشا منظورم نیست. منظورم از چه خانواده ایه، چجور بشه اعتماد کنی، اطلاعات در واقع مجموع سازمانش و در اختیارش چقدر بهش میتونی اعتماد کنی، چقدر مسئولیت پذیره، چقدر آموزش پذیره، میتونی توصیه بدی امیر حسینو در اون کار و در اون بیزینس برمی که بتونی در آینده یکی از مدیران برجسته مجموع بشه. آها. ما توی بحث منو به انسانی اگر خدا به خودم که من حتما که زنده امره عمرم بی اگر انشاءالله خلاصه <تصفح> نیام این کاری رو منو به دوستم ببرم من باشم اینجا حتما اون بحثا روی بحث استخدام و عرضی عمل یک کم تعمالمو بیشتر بکنم خیلی دلم میخواست خیلی حرف با هم بزنیم و ببخشید دیگه 4 جلسه بیشتر نمیذارم. اوکی من دلم میخواست که واقعا چون من وقتی درس در رابطه با استخدام آقای کاظم یه کارگاه مفصلی دارم چون خیلی بحث مهمی بر همه مدیران ما. بله ما اونجا چی کار می‌کنیم؟ از اسسمنت سنتر استفاده میکنیم اگر بیزینس های بزرگ هستیم، اگر کوچیک هستیم، از خودیا خودمون بلدیم یا مشاور میگیریم. تست روانشناسی بهش میدیم مصاحبه های هدفمن انجام میدیم سوالاتی که میپرسیم البته خودمون باید بیادتون باشه ارزیاب که یا شما یا مشاورتون یا مدیر منابع انسانیت بعد خودش دادن بی مسئله باشه ها اگه ببخشید من ادادم باشم که مسائل شخصی رو با مسائل سازمان قاطی میکنم اگه شما خیلی خوش قیافه تو خوب میدم شما خوشگلی ارزیابیتو تاصیم میزرم ولی میگم بحث اثر زیبایی چه دختر زیبایی این اوکی، ولی او قرضیابی تثیری نیزنه. نوع پوشش شما مهمه تو مساحبه. حالا بعض این آقا بلد دیگه کتاب و اطلاعات و مقاله وجود داره. مثلا که چهران رو شد تو بزنه. اگر تینجری هم میپوشه، تینجرین رو دونستان این کتایی که اینجاش چرمه، نمیده هم، شعراجین مرتب، نمیده و با کیفش و با کفشش سه ته ولی واقعیتش اینه که ظاهرش رو ارزاوی میکنم ولی یه وزنی داره. ظاهرش علازه پوشه ششا. یه وزنه. چون غذابه شما که میخواد با مشتری مذاکره کنی، به هر وقتی یه لباس شروع بپوشی، یه لباسی که در شانه مدیریت نباشه، خب تاثیر میذاره. چون همش دارم شما رو توی جلسه مذاکره چه کار می‌کنم؟ آقای ربی عزیزم، عجب. آقای خوابت میاد؟ خسته ای؟ چشات درد دیدت خوبم اون بر؟ سوال دیگه؟ چی؟ سوال بفهم داشت این <تصفيق> که شما و خود توی سازمانمون اگر همکاری منجر بشه به رفاقت بله و این رفاقت خیلی موقع درد سرسازه اف، اف در چی زمانی درد ساز نیست؟ چون همیشه نیست اه. سمیمیته تو هم با؟ جدی آره تکرار کنیم براخره خودتون تا آخر شب همین که من با شما سر می‌گم ولی جدی هستم نه اینو مدیریت چه میتونه می‌تونه کنترل بکنه آها, آها. نه نه نه ببینید یه بحثی داریم یه بحث فرهنگ سازی ببینید من یه, خ... یه چیزی به شما بگم چرا میگیم استخدام های معتبر سخت دیگر دیگرا برای مدیریت کردن باید قانون و شما نمی‌تونی بگیم من با آقای کاشن چه رو صحبت کنم که را بهت هم چه جوری باشه که نمیشه به من بگی بیرون با قهوه بخورم یا نه به شما چه ربطی داره من با ایشون می‌خوام بیرون قهوه بخورم شما اصلا نمی‌فهمی نه فهمی, فهمی؟ متواعدین مدیریتش کار بس ولی توی فرهنگ سازمانی اگر یه سری قواعد و ارزش‌های رو تعریف بکنم و خودم هم الگو باشم یعنی چی یعنی وقتی که با کار تن و زمانه‌ای که می‌تونی با کارکنانم که جلسه می‌ذارم همین موارد رو تکرار بکنم. کنترل کانترول نمیتونه کنیم میتونه این رو می بگه دوستان ما باید یکی حفظ ترنبانه داشتیم این رو همه جدیه کار جدید. بحث های زندگی شخصی ما مهم هست ولی خیلی نباید بازگوش کنیم من چقدر تجربه دارم که کسایی که خیلی با هم دیگه مثلا در وقت صمیمی شدن چقدر رو زندگیشون تاثیر بعد گذاشته کیس مطرح بکنید مدام تو اون جلساتی که با کارکنانمون داریم چیکار می‌کنید بهشون آموزش میدیم هی تکرار میکنه ملک ذهنشون باشه یه دونه چی درست میکنیم؟ از نامه یه دونه تابلوز ها یا منشور اخلاقی ها ولی ولی دوستان اونو رو چه قرار آدم‌ها یه جایی که گرفتایی نمی خونم دیگه نمی دونم نمی خونم آره دیگه نمی خونم. خیلی وقتا می که چشم اندازه چه؟ خود نمی دونی بعد من کار کنه جواب بدم می هست؟ پرس جنوبی پیش بچه ها تو اصلایه بیا خب بچه ها بگیم ارزاشه های اخلاحاتی چیه؟ هرگرد بچه من به عنوان عوسه خونده بودم رففت بودم به خاطر چی بخاطر که وقتی من یه مشتری دارم اصر شبکه باید با دیدگاه ها ششن نام کار چیکارکن بیزینسش چکن اینایی که در هم میان تو جمع که هم مشتریان من هستن هم دوستان من چی میخوان چی طال بر؟ چرا درس نامه بهتون میدم میخوان که حالا شما ها حتما همین کار میکنید اگر تو وقتی خوگیش میگی ببین این مثل روم ف نداریم؟ یه چیزی اضافه میکنم، یه پاور اضافه میکنم، یه مقاله برای تفریزم چهار میکنیم؟ در واقع اینا رو میدیم، ختمه شما مشخص میکنیم با هم داریم گفتمان میکنیم، برای که چی بگیریم نتیجه بگیریم شما ببخشید سوال شما، اگر که من و نوید جان توی مؤسس شما هستیم حالا جنسیت رو مطرح نکنیم، ما دوستو من اینجور مثال من نوی وقتی که تو ماستر خیلی با هم دوست خیلی رفیق میشیم. شما این رفاقت ما رو میبینید که داره مثلا رو کار ما تاثیر، مثلا چی؟ ما کم کاری میکنیم، بیشتر ب... میخندین، تو بسی خودمون میگردیم چون ایشون هم آیتی منه. آره اینطوری منظوری شده. میخوام خب راه کار بگم، بخاطر این, این دارم سوال میپرسم. آقای سلطانی مسئله شو بگه بعد آقای وقت شما شما نزدیک کار میکنید؟ چای تو عربی اگه من میخوام شده، روی با ایشون داشته شما هم تاثیر می‌ذاره. شما هم تاثیر می‌ذاره. ما خوام جابجاش بکنن. ببینم که, که مثلا شما من... تو اول اونجا کار می‌کردی. درسته. دیگه امروز من اصلا میدونم که چیکار کنم امروز کارش تغییر کرده. مثلا برید تو اتاق دیگه این مشینی تو یه واحد دیگه. اون موقع شما تاثیر می‌گرفتی از این نزدیکی، از این دوستی، از این با هم بودن. الان کار شما هم در شاخ. چه تأثیری می‌گرفتم؟ یعنی کارم وصل به دانش و تمامندی آقای نویدخان بوده نه دو در یه ساعتید دو در یه ساعت. خب، حالا من بهتون بگم ببینید، یه سمینیه که اگر مشکل برای شما، مسئله مسئله برای شما اینجا کنه هیچ اشکالی نداره با خاطر که ما دو فردی هستیم که وقتی که ح چون دو تا ما چ من هستیم و حضور بزرگ ما تو با هم اطلاعات رو شق میکنیم تبددل نظر میکنیم در عین حال الواز شخصیتی شخصییت رو قبول داریم خ اون اتفاق میخوام برم خیلی وقتا تاثیر مثبت میگیره. ولی به دلیل آی یعنی شما میگید دو نفر مثلا آدم آتیمنتوانماً برای مجموعه چیه لازم نیست؟ رو برداری میبره ب توی مجموعه دیگه. حالا این دور بودن ما میگی که شاید خیلی خوشایند آیا و روش رو تحصیل بازه قبل از اینکه این دو نفر اول پایی رو اولی کاری که بد اون چیزی که بدنه قبل از اینکه تصمیم بگیری اونها رو توی این مشارفت دخیل میکنی یعنی چی؟ چون آقای چیز گفت مسئله ایجاد نمیکنه ها داره بعد از اینکه من جا به مسئله فکر میکنه می میگه بچه ها من توی اون قسمت این مضلات این مشکلات رو دارم این فراییند خوام کو شده بعد می بشه. شما دوتا دوتا می دو, تا دو تا خیلی خوب من هستید، این جوان خوش دیر خوش قیافه بعد مهارت های آیتیتون خیلی خوبه باخوام دیگه چقدر خوب کار میکنین چقدر فضای اتاقتون شاده ولی بچه بینیم به من ایده بدین من نیاز دارم تو اون قسمت یه آدمی رو ببرم که بین شما دوتا یه نفر باید این کارو بکنه. والا فکر می‌کنم من چه بکنم که مشکلات هم, هم مشکلاتی که اونجا دارن حل بشه امکانه یک، اول وقت من مسئله رو با ایشون میذونم فکر نمی‌کنم شما بخو میونه من ایشون خراب کنید مرا اصلا دور کنی فقط صدای خنده‌های منای بیرون میون مسئله شما ب... اصلا می‌خوام یه راهکار دیگری به شما بدم که ما دوتا هنوز هم کنار هم باشیم ولی اون وایدا وضعیتش درست بشه ولی اگه از قبل بدونم اون حس خوبش شما اون نکاتی که بهتون گفتم شما چیکار میکنید؟ توانمندیهای های ما رو چیکار میکنید؟ مطرح میکنید یعنی به ما میگی چون شما توانمندی نه بخاطیم که من بخوام بین شما فاصله بذارم؟ نه اینکه از عملکرد شما ناراضی هستم پس پس بنابراین باید لطف بکنید من رو با تفکرتون، نگرشتون و حسمیمگیری که کردی من رو در جریان بذار خیلی وقتا من به مدیران میگم دوستان بهتره مدیرم مدیریت مشارکتیه. ولی این نیاز به یه فرهنگ و ظرفیت در مجموعه داره. درسته؟ یعنی یه موقع امکان داره که آقای رعبی تو گرنودیش نه که کارگراش مشارکت کنه. اون براش اون مدیریت خیلیشب کاربر نداشته باشه ولی اصولا شما با کارگراتون هم بتونید مباحثتون رو خیلی پدرانه مطرح بکنید نتیجه بهتری می یکی نشونش رو بدی دلسووزشون به خانولاشم اهمیت می پسش باشر میری توی کارگاه حال پسرش هم پرس حتی میخاطر یه پول جزی سر هزار نه خیلی نظام آن بهش بدی تو پاکت خارج از برنامه دیگه میدونم که گرفتاری. اینا چی کار میکنه؟ اون مدیر منابع انسانی هست میده که شما حس پدرانه و در واقع تا زمانی که اون سالم بود و کار میکردی یا بدون گرفتاری میده برای تو مهم نیست این سرمایهی که دایید در گلند مدت روش فکر میکنی آقای رویی ازم چی میخواستیم بفرماییم؟ بفرمایید؟ من فکر اردو کردم آیه سلطانیان سلطانی... باشه سنتیشه داریم میگه یار یه جور دیگه ای نگامتونه مقابلش میونه اوکی اخه سلطانیان یا سلطانی میاد میاد نه آها. بده خب ما من تاپ نمیش میادسا سلطانیه خب پس فرهنگ تو خودمون فرد شکلارش خب؟ نشسته دیگه است بچگی بزرگ شده بله اون داره بعد نمیتونیم فرهنگش رو که حساب نه دیگه مثلاش اینجاست که هر چقدر حالا اگه اجازه میدی برم توی سلاید بردی چونجا سوال کردم با هم دیگه در صحبت کنیم ببینید هر سازمانی همون عرضش ها و در واقع که داره و منشوری که داره قسم قسمنامه مثلا ما مشاوره قسم قسمنامه ای داریم مثلا یک داشت از زمان قبل از انقلاب تو مجموعه که من کار میکردم اون قسمنامه وجود داشت البته همون کمی تغییر کرده با خاطر بحث و اقتصادی ولی مثل واکلا، مثل پزشکان، یک قسمنامه داشتیم حالا قسمنامه، فرهند سازمانی، منشور اخلاقی، منشور سازمان، چیزهای مختلفی اینها وقتی که همه مجبور باشن رعایتش کنن، یعنی آقای کاشانه به عنوان یه مدیر این رو طالبه تو تمام جلساتش مذاکراتش توی رفتار خودش ما رو دعوت میکنه به پذیرش فرهنگ سازمانی من مجبور میشم که همون رو رفتار کنم شما توی ایران کمربادت رو کی بستیم پشت رون؟ زمانی که چی شد؟ نهیه بیاصاق ها بیا حسصاباق فر پنج سازی شد ک تو تلویزیون برنامه گذاشتن بالی توضیح دادن، هنوز هم دا سالکاری اتبااق میفتن رو می کرد غیر جه مدل ماران هست یه فرهندموننیغ کازی می چون نراحت میشه چه می خندیم؟ ما باید زور بالا سرامور جی هم نکرد پرود رو نمی بعد بحث فرهنگ سازی وجود داره دیگه و بعدی که چقدر برای من خوبه؟ یادتون باشه من اگر قراره تو سازمان آقای کاشانی کار کنم اگر ببینم این منشوره برام خوبه انجام میدم ولی امکان دارد درم اونجا رفتم برو کار دیگری بکنم و من خیلی آقایون رو که اینگه ببین هر این سازمان رو زنباز دختر بزن یه هر این سازمان برام مهمه هر سازمان برام مهمه چون یه جای دیگه هم نظارت و کنترل وجود داره خب با همکاراش حدا خودش میشود. چه آخانه باشه چه آخوش. بیرون از اون که با خودش دارده. چه میکنه. ولی اگر که دنبال مثل شماها دنبال توسعه فردی باشیم برند بیرونشان برایش مهمه. چون دوستان ما یه برند سازمانی داریم یه برند شخصی داریم. شما به من گفتی که چرا شنبه خوب یا بعد یکی گفت آقای ابراهیم پرسید. به خاطر که برای شعبانی سیما شبانی این برند شخصی مهمه. تو هر مهمونی که دعوت میشم دوستان میرم با هر نوع پوششی نمیرم چون نمیدونم تو این مهمونی مختلط آقای کاشانی یوهو کار و یوهو شگر زاده بشم سمیر خانم رو ببینم نمیدونم چه اتفاق میفته. پس مواظب پوششم هستم چرا؟ چون یک برنامه برای آینده خودم بنجام برای آینده خودم دارم که معلومی سکی هم باشم دوزار ساله بیشه. یعنی آ آره سال هزار که من میخوام به اون جایگاه حمالی که برسم نیاز دارم که این برند شخصی رو حفظ کنم. یعنی اینکه نوع پوششم مهم مده تدررس میکنم و کا مشاور مدیری هست اگه اگر آشغال بندهزن بیرون شما من پشت روم به من اشغال بندهزم بیرون. ای چی بود این جفنگ چی و مسئولیت اجتم سر کلاس خودش اینجوری رفتار رو درسته؟ ها. یه چیزهایی رو، حالا آقای کاشنی برای خیلیش یه برند شخصی احتمالا در نظر داره سمیراشون، یه چیزی نویجان، یه چیزی عمیر یه چیزی تفاید، آقای رعبیلی یه یه برند شخصی مهمه اگرم بهش فکر کنید، بهش فکر کنید، حتی پوششتونم بچه براتون مهمه، من حتی به بچه های جوان میگم چون دانشپذیرهای خیلی جوان دارم تو سنینه خیلی قایدم. بهشون میگم یه بچوها الان یاری که انتخاب میکنی دوست دختری که انتخاب میکنی مهمه فکر نکن مهم نیست چون من تو رو بیرون میبینم اگه با یه دختر خیلی جلد ببینم به مدیرش آخای کنیم چی بود استخدام کرده بودی؟ شخصیتش معلومه خواهد تا این حد دیگران رو شما چی دارن؟ شما فکر میکنین کسی شما رو نمیبینه من بابا هم نمی‌کنی تو مرکز خربی می‌رم آقای کازم من می‌شه کس من نمی‌م اصلا که کار خلافی نمی‌تونم خدا رو شروع بکنم گرم کو یکیلو می‌بینم میرم مهمونی یکیلو می‌بینم اصلا نمی‌دونم کار خلاف بکنم می‌دونی چقدر بدبخت میشه بابا؟ دوباره کار خلاف نمی‌دونم شیطون بوده با کار خلاف نمیکردم کلا بچه خورده از آنکه کار بدی‌ترم سو یک ای بعد اینکه گفتیم شاید می‌کنی خیلی از روش نباشه <تصفيق> که توی یک سازمان پرسنل و کارمنده یک حساس هستن و برایشون مهمه که شاید مدیران خیلی روش اهمیت ندار من زمان شرکتی رو کار می‌کردم که من به عنوان مدیرامل اون مجموعه بودم چهار تا مدیرامل چهارتا شرکتی دیگه هم زیر دست من بودن یه مدیران داشتیم. خودش بله موظف بله. بود بله. که برای خوش تسهیلات داشت و بله. نقش داشت رو تصمیم گیری ها بله. شما هم من متاسفانه بله. بله. نقش داشت متاسفانه بله. بله. چون یعنی شف مدیر عامل میه متوی نبواد با هم کار بکنن چون همیشه چیزاش علی بچا من یه کیس در این موضوع دارم باشه بگم یه کیس براتون تعریف بود بعد خیلی جالب بود خب من اونجا گهی میشنیدم که من روشم بود ساعت 6 اسوت تو دفتر بودم که کارمنده که در از درمی منتون گفتن وای آقای سانیه باز اومده چون رو میزه هر کزونشون اینقدر کار بود <تصفيق> کارا تقسیم میکردم بعد میشنیدم که در مورد دیگران چی میگن میشنیدم مثلا اون آقای مدیرامل اتاق بغلی که میمن میگوزن آقای فلانی باز دوباره اومد اینجوری این آقا همش به خودش میگه مهندس اون یکی اینجوری بود خب اینو میشنیدم خب خیلی برام جالب بودم در مورد خود من چی میگن. خیلی به من چیزی نمیگفتن. یا نمیشنیدم. اینکه چطور اونجا بودی نمیشنیدیم که دلقک شما چی. اون که رئیس اداره مدیره. این چقدر خوب میده. این لباساش همش اینجوریه. رئیس ادارهمون دا سر شوره میذاره. باخ نازنه. با اینکه سنش همنا یه سر من خب بزرگتر بود. خب شام کو براش بخاله. آقا بیانس رافا. من جدی میگم خوام اتفاقا خب مرسی دوستان می‌بینید شما اگه می‌بینید که نیرود ما یه موقعی خدماتی داشتیم آقای کازمی عزیز خیلی پسر نازیه هر روزم هم همکارمو خیلی دوسش دارم کردام هیچ‌وقت رحم نمی‌خوره وقتیش با خودش قاله ببین من وقتی وقتی من ایشون ایلاد جان تو رو خدای لبخند بعد من که می‌بینم یه لبخندی صورگی دلوناشم تا حالا من ندیدم ها یعنی لبخند می‌زنه شو خنده نمی‌ت چیه خشنه خشینه دیگه. ماله قسمتیه. کردنشینه. قسمت خشین که سر میبره. پسرخواله شد از اونها که سر میبرده. من خیلی توسهش دارم. من میگه اگه یه آره استفاده میکنم از چیزاش از پسرخواله هاش خوبه هست. بسرخواله شد. بسرخواله شد. ما عادیه. یه بار به من چی بار. که چی میتونی منو داماته کنی؟ دمه گرفت بگوییم کنم رو بکشم بگوییم خبتا با زیندان مندانم میره گفت آره میره فقط باید خانمه داشته ترمی کنیم بودنم دمیش درم ادام هنگی کنیم چی باید داشته باشه؟ باری اینی که شما دارید میگید آره سر شوره داره یه کدوم از ماها که باهاش رفتی ماها یه شامپوه خوب من این پای براش کردم مرسی. این نشون میده که من به رفتار همکارم، همسط خودم یا دست خودم، چقدر حساسم کادو بهش بدم چون شب واقع خودش متوجه می چقدر زننده است. من هیچوقع امکان نده شما رو ببینم، لباس تو خاکی باشه، نخیجم و با بهتون نگم. یه چیز شده. پلیس در پشت ما. اصلا رو در بسون ندم، ما مدیر قای مقام داشتیم، شون می میرفت ازشون می امد یا ازشون می رو بالا. پیره مرگی هم بود. چیزی هم شما ندید چون پیرن این خیلی بلنده. این چیزی مشخص و بد نبود. ولی یادش می پیره بود. هر وقت میبود. بچه هم چون راحت نمیشه میشه گفتم چرا نراحت بود. خب بدتری که اینجوری بره تو جلسه. یک آدم بره تو پیره هم کده هم آقاید ببینه. به بخش نسید. بچه هم کانه بود. یادش روی بیاد. داره بست کنیم از این بعدو و خوب و بعدو بد و خوب و اینقدر نخن سمیرا این خوب ها که البته سمیرا جا شما مادیر عامل جدید مثلا جبون و اینها یه همانی ماجرا درست کنیم ظرفیت اون آدم نوع فرهنگ تو فرهنگ سازمانی که من یعنی واقعا هم که شما میگید یک خانواده بودیم سمیمی برای جدید و هنوز هم هستیم، اشون شده ما همینید چیموند وقتی این کارا نمیدیم؟ <تصفيق> خیلی لفت قیافه شمیه پورفوس رو بارتازه بود دارد من من یادش نم به قیافه که خیلی هم دوستش ايلار خمیسه تو سری انجام میدادیم یه وقت مالادگی پیر پیر که خیلی پیرم اما اون ذهنش مشغول بود چون پسته خیلی زیاری انداش هم همیشه فراموش میکرد دیگه این دقت مثلا من وقتی میرم کوسولا داسوی آینه هم درو خودم رو نگاه می‌کنم اینجوری می‌کنم ببینم حالا خیلی باختم باشه خیلی وقت ولی شده مثلا هم شب ساعت جلسه میذنم از جلس اومدم آقا خودم دلله خب بابا بگی من اصلا صبح وقت نکردم برام تو آینه خودمو نگاه کنم چه بی نم مثلا یه ذره حالا این ریمله یا یا نمیدونم چیزی حالا دودی چیزی اینجای من آقا ادمو بیچاره ده بارم شما نگاه کردی دوستتونو هم کمی مذاکره شما ولی نمیاد بگه بابا اینجا تو یه دستی بکش میفرمودی، پشت سرش چوره داشت بعد میشد مثلا مییدم می‌خندیدن به اون بیچاره خب من رفتن رو برای شامپینام گفتم ولی خب این یه بیماری بود دندروفوسیسیس زینا بود که نمی‌چسبه کاری اسکار بگذاری با هر ازم میرم پتشو می چک دیگه حد اقلش خیلی خب برام جالب بود که مثلا ببینم رفتارشون نظراتشون چه جوریه یه مدتی گذشت دیدم خب من خب سه ممیشوز. تا منشی اونجا داشتیم ما مسئول آیتی داشتیم شب خب هم هم دختر بودن ها. هم دختره جوان دیگه <تصفيق> حالا خانم‌ها همه خوشگلم بعد اینو گفتید بله در پاسخ من بگی بله همه خانم‌ها زیبا هستن خب من میگم حیا بخرش بعدم میگم که مثلا من از درک میام تو سر تا پای پوه رو اسکم میکنی واقعا امیتوره ها <تصفيق> <تصفيق> این جیه. چیه نیروهای کارو میکن میکنن با شما چون حالا یک بار فقط خانم من مده شرکت رفته بود و اینا کارمند بشه دوستا مثلا ببینن که چهجوری چهجوری اون آقای قاشینه قبل که دیگه. مهم بود که چی در مورد من فکر می‌کنن. یه پسر داشتم آبدارچی بود. خب این به من نزدیک‌تر بود. برش گفتم که ببین. از چی گفتم؟ گفتم دوستم کسی جاسوسی کسی رو کنه، کسی حرف گفتم که اینا در مورد مدیران چه, فی... چه صحبت میکنن. میخواهم دفعا در جریان باشم. بعضی مدید این پسر اومد تو، آقای سانی، یه چیز شده روم نمیشه بگم. گفتم مگه بده؟ گفت نه ولی خب این چیز شخصیه شاید نباید بگم. گفت نه بگو اگه چیز بده نیست. گفت این خانمان میگن آقای سانی لباسای لباس های زیرش همه سته. <تصفيق> خواسته تو باشه ما در یه جامعه چی مذهبی با فرهنگ ایران ببینید حرف رو رو بشکاریم بر همین میگم حد خودم رو این موازب خودمون رو برگاشیم بر برای همین میگم موازب یارایی که انتخاب میکنیدم باشید ما اسکر، همین که خیلی کرده قشنگی رفتیم، مرسی <generators> ما مدام داریم اسکر <shouting> توی مرکز خرید، تو خونه، توی لبه پنجره با وقت ما یه موقع پنجره مثلا بیام با لباس خونه میگم ووی نکنه یه روبروی رو دانشجون باشه حواظم بازنم باشه حواظم چی پوشیدم چونان سله میرید یه سختتر، میری داستان نه، سخت نمیگیرم، ولی بخوام میگیرم حالا بتونیم چون تجاره و مختلف اینو به من آموخته که اثر میذارید ببینید البته نقشی که تو جامعه دارید ببینید حالا چه حرفم بابرم نقشه مدرس میگن نقشه انبیاز خیلی کار همه میکنن ولی شما از اونی که معلمتونه مدرس را اصطورتونه انتظامات بعضی جایگاه ها میسیم که مزی روحانی درسته که خیلی کار را هم بکنن ولی من آدمی که روحانی، احساس هم آدم مذهبی با خداست، نجیب انسان پاکیه نه این, این به خاطر لباسش، به خاطر ادعایی که داره آقای کازمی میدونی اینه که شما آره اگر من نقش شما رو داشتم خیلی شاید اصلا این چیزا فکر نمی‌کردم چرا اصلا ما فکر می‌کنی؟ بدون چیزی می خوام یعنی می بگم یه موقع هست می بگم یه موقعی چون همینجوری بدون مثلا چیزی یا پنیر مثلا یا مثلا یه چیزی ببینی همینجوری می رم تو بازار بعد مثلا پیش خودم میگم وای مثلا حواسم باید باشه چون همین که به شما گفتم و جدی گفتم میرفتم کوه یک رو می, دیدم. می رفتم مهمونی یکی رو می دیدم. حالا از بستگان بمانند که شما تصادف و, و پسر حالت رو می بینید. توی با اون هیچ ربطی به هم ندنده. منظورم برای همه می نه که گه اینجاان رم و همه جا میرم ولی حواسم هست. کی در چه جایگاهی هستم و چقدم با شخصیتم همه هنگ و شد اینو یادتون باشه، اون زمانی سخت میشه که مسئله میخوام بگم شما مذهبی هم نیستی؟ اعتقاداتو مذهبی هم ندون که حالا من کامر کنی مختارتون میخوام لباس باز بگوشم نه من اصلا که پوشش برام مهمه مذهبی نیستم، مؤمن نیستم، ادعایم ندارم ولی پوشش برای مهمه میگه چارچیری برای خونم و حریمم و بستگانم و فامیل و جمع دوستان و اینها دارم برای همه سخت نیست اون زمانی خیلی سخت میشه که شما برات مسئله باشه خب بعد چی شد دیگه؟ از کجا فهمیده بودن؟ خب یا ست اگه... همیشه لباس میپوشی حد زده بودن. من چی می‌خوام بپوشم؟ هوا سرده از سرده دیگه. خب مثلا میرفتم برای خودم لباس اینا بگم لباسید. لباس از این بستای میگرفتم که مثلا شورت وزیر تو اینا همین فن یه رنگ و اینا هستش. بعد بخودتون می‌بودین تو, تو محل کار مثلا میخریدیم. یا نه. من می‌پوشیدم اینمندم. خب بعد چه جوری مگه لباس بدل یه بار اتفاق یکی دو نفر پیش اومده بوده. که من اصلا توتال، من کوتمو بپوشم یا بندی کفشم رو ببندم. خودم حواسم نبوده. بالاخره لباستم معلوم شده. اونو از اون پشت از اون تاد اسکن کرده بودن. خب <تصفيق> اسکن اوقابی هم کرده. <تصفيق> <نه>، من <جمعاً تصفيق> دیگه اوقابی نمیخوام. بعد اینو که شنیدم، خب برام خیلی جالب بود که چقدر پرسنل روی حتی ظاهر فرد چه توجه میکنن و حتی تو نوع احترامی که بهش میذارن چون میام یکی از کسانی که اونجا بازگوی کردنشو بگیم <تصفيق> یکی از اون کسانی که داشت با من کار میکرد در اون شرکت های زیر مجموع مدیر عامل بود این کسی بودش که دقیقاً چند موه بعدش توی انتخابات ریاست جمهوری جز یکی از رؤسای ستادهای هاشمی رفسنجانی بود درسته که مشخصه که تو وزیر میشو از این ودا وایدا این یکی شم اون فرد بود آقای مهندس فلان که ولی دمشون پشتش در ان چیزی میاد بله. که بعد من تو یه اون جلسه شورای مدیرانی که مثلا ماهیانه با هم داشتیم گفتم ببخشید چیزی بگم نمی‌شه گفتم ببینید اینا همین الان اسکنتون میکنم مورد توجهی آی فلانی لباساتو لباس عوض کن بو ندی سیگار ندی سیگار بوی سیگار،, سیگار, سیگار این که... از یک از چیزاییه که کلا قراغاتی، پاپوی عرب مذهبی چی معجونی میشه. اونام دخترای با... الان همه با بابا... دختره ماشالله همه دوستاصراهای جوون خوشگل خوشتیپ و خوشبو دارن دیگه. وقتی بیان مقایسه بکردن با یکی دیگه، خب مثلا تو ذوقشون میخوره. ولی تا... نه، اصلا تو محیطشون یاد نمیگیرن دیگه. شما چجوری میتونی به نیرویی که آبدارچی بگید لباس مرطبه بپوش، لباس تو اتو کن. بعد خونه اتو کن، بشور این بلیزه لباس رسمی که بعد بپوشی. و مدیر خوش لباسی می پوشه که چروکه. هوم؟ نداره. یا اینکه ببخشید بو میده. من داشتم براتون اون خدماتی روز اولی که ما همدیگه دیدیم خب این بچه از شهرستان اومده بود تو کار می کنه. اصلا مام یعنی چی؟ ولی اینقدر پسر گلی بود اون گفتش که خیلی من چون دوستش داشتم. اصولاً هم رابطه ارتباطی نزدیکی در عین همون جدیات صمیمیه با بچه‌ها برقرار کرد. به من گفت میشه بر من بخری و مخام میشه کو شده کوتا آار ازم شروع ببین و تو برو نمماژ بر مثلاش خیددندون مثال ماام اتکالان مناسب به قیمتی که میدونسم با درآمد اون هم خوبی رو براش خریدم الانم ارتقاط پیدا کرده از من قشتکن لباس میپشه در یعنی یه جایگاه خیلی بالاتر از اون چیزی که اون روز بود هستش میخواستم یه کییس رو براتون بگم ب اینکه میگم که حالا نوی جان کو چقدر سب آقای دیی عزیز من رفتم. با چندتا دوست یه توری بیرون بگرد توی اون تور خیلی شهر خیلی قشنگی هم دفعیم اون لیدره خب گف و گوب میذارد همه رو معرفی میکرد و فلان و اینها وقتی که با من صحبت کرد کف وای و. فکن فکر کن یه جمعی نیگه سخت نیم کف آخ شما خیلی دوست اون دوستت اون دوستت تون همیش هم دهنش جولی جلوه فکر بس تا آدمی دیگه کفتم ببخشید کی؟ کنم اون دوستتون که همکارتون که استاده خیلی استاده خوبیه تو مدیر پروژه آخو ماهی فکر کفتم بر حالا فکر کنید اولا که خیلی ناراحت شدم از نه از حرف اون بعدها پیش خودم کنم ببین من اومدم اصلا برم شیراز. بعد نمیخواستم با وسیله مثلا هم برم چون دوسته تا از روست خانوادی با هم بینید با آستایش و آرامش باید همه همش هم بگرمید به امون یه حالی بده با خاطی که خودمون میریم بیشتر کرکر و قنده و ایناس نمیرون جایی خوب ببینیم فکر کنید تو اون جمع و حالا یاده آدم های متشخص دیگه هم که اونجا بودن ایشون جوری اصلا هم منو رو ناراحت کنه بعد من گفتم که فلانی فلان خلاصا فهمیدم کیه. آره یکی از دوستانه من بود که خیلی یکی از آدمای خیلی مطرح هم هست. خیلی هم تو کار خودش حرفه‌ایه. حالا به هر حال من نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده بود. من اینو درشون ندیدم. ولی مثلا حالا اون چرمی که این باش درس داشتم با اون آقا که شون دهنش بومی داد این اصلا جز یه خصیصه اسمش رو یادش نبود آخای کوشانی، آخای ربی اعظم میگه همون همون دو همکتا تواصدی که درش پس به چی مهمه <تصفيق> که چی بپوشم <تصفيق> چی عط استفاده کنم چه در واقع پوشش چه بوی خوش و همه اینا میخوام بگم چقدر میتونه چی باشه تا حتی زیورآلات یه استاد چی چیکار کنه تحسین گذار باشه درسته؟ پس بنابراین اینقدر ما باید چیکار کنیم روند بهرده شخصی خودمون حداقل حساس بشیم ولی یادتون باشه این سختیش هم اول کارها بعد دیگه اصلا عادتتون میشه عادتتون میشه که ست لباس سه ست را استفاده کنید ست لباس و استفاده کنید جونم، آقای رویی میخواستم آقا. آیا باید اجازه بدیم به کارمندانمون که پشتر دیگران حق به یا این حتی که سازمانی اشتباه های برند زنن؟ گذا فگویی برای گذا فگویی یعنی دوبه همزنی یعنی پشتر دیگران صحبت کردن چیز خوبی بیست ولی یه چیزی وجود داره اجازه ندادنش یعنی چی؟ امکان داره که من بیام بدگویه نوید کنم پیش شما این یه بحثه که شما نبد به من اجازه یه موقع هست منو نوید با همدیگه بعد شما رو میدیم شما اصلا نمی بود با دوتون حرف و سخل خب بالاخره دل... خودم وارد مجموعه میشم اون گوشه مجموعه می خواهم داره. خب آخه یه چیزی هم هم. اگر <تصفيق> که این کار رو بلد باشی، اصلا نباید ما رو استخدام کنیم چون یک سری از، ما شش تیپ بچه چه تیپ آدم بدغلافتدادیم. یکیش هم ذااف با که میگن تدشون کنید اواصوللت رو استخدام من دقت میکنم ببینم شما چقدر اهل حاشیه هستی یان. اصلا میپرسم، وارد مسات شخصت میشم و مثلا دوست نزدت کیه چه خصویاتی داره؟ مثلا با خانواده فامیل تو چه بود با 540 بود با دوست پسرت چه چی داری چقدر دوستش داری خب اینا چی میگه چی جوری در مورد اونا صحبت میکنه دام اون کی دوستش از مورد کار قبلش ناراضی به اومده چی داره میگه اینا شما داره یه آلارم البته بچه اینا هیچ کدوم درصدی چون بحث ما گفتم صفر و تیفیه خیلی وقت‌ها باز هم همه این کاران رو میکنیم طرفی اگر که انتخاب مناسب بکنیم یک حال میتونیم رو توش کم کنیم و اگر هم متوجه شدیم باز هم نبا مستقیما چون بحث یادگیری داریم که این پایین نوشته بودم گفتم فرهنگ سازی بکنیم یعنی که در جلسات همش بگیم که ما باید هم دیگر دوست داشته بشیم ما باید مشکلات هم دیگر رو در حد با احترام فیدبک بدیم در جای مناسب در مکان مناسب اگر دیگه دیگی منو ننوید آدم بهشونی نیستیم یک گوشه دوید و جدا منو جدا میکشونی و به ما تذکر میدی. نهایتش تو ارثو به عملکردمو چک کارم کنی، امکان هم بده میشه من کارگره خیلی و اهل رو به هم میزنی، نهایتش اصلا نمی تونم. چون اگه ناتونم رفتaramو تغییر بدم و مشکلاتی که برای مجموعه شما ایجاد میکنم خیلی بیشتر از سودی که دارم به شما میرسونم، چیه؟ تای تاش آخری راه نه اولی. آخرشون که من بندزی نهایتش بیرم. ولی اصولا آدم ها چه کار می‌کنند چون منافع مادی دارن دوستان آقای کازمی می‌ترسند و یک بار یادم میاد در زمان دهه شهست آخرای دهه شهست یکی از خانم‌ها که خانمو توامندی هم بود اومد و گفت آقای کاشانی با این سمیرا خانم فیلا اشون متعهل و خانم مثلا متعضیقه بود همین اصلا هم چیزیدمگو خیلی روبط سرمینده اصلا چیز بعد و اینایی گفتن شد مثلا من بردار بودن شما را متر با صندوق سمیمی همین میدونه آقای رویط اتفاقی افتاد به محی که مدیر عامل شنید با پرونده شعبانی رو بذار دختر کاغوزی بره. اومدن، این بره بالا اون بره هیچکی رو توغم نکرد گفت هیچکس رو بیاد این خانم از فردا نیاد. رسمی هم بود آدم رسمی رو سخته از کار در واقع شما باز خریدشون کنید خیلی کار مشکلیه ببینید تو اون سازمان هر وقت این نمونهاشو ببینید یه دو آفدارچی داشتیم و یه خانم چفتشون رو اونها رو منداردن تر سالهای جدید یعنی توی هم دهه هی هشتاد هم باست که اضافه گویی؟ ببینید حرفا نزدن، سیاست مدیر حاملیم بود و درست درست زدن، میدونی چرا چرا 300 نفر دیگه قلاف می‌کنن تو مجموعه من هیچکی در باز نمیشه. بگه آقا خواه، یعنی امکان نداره میدونی چی میخوام؟ بگم، حواسش جمعه شد داشتم، یکی اومده من از تلن به من گفته من ناراحتم از این رابطه سبین منم خیلی خاشم باش ناراحت، به توچه رفته د یعنی جایی نشستم خب من اونجا نشستم گفتم خب چرا احساس ناراحتی؟ خب به من بگو چرا ای بی میبینی؟ خب خیلی متحله گفتم خب خب نه بابا خب, خب, خب, خب اینا با هم خیلی میخندم می‌خندند گفتم خب گفت خب, خب دیگه من ناراحت شدم گفتم مگه اون زن نداره گفتم اون زنش ناراحت شد. من گفتم تو از کجا می‌تونی که اون خانم مثلا زن دومه ایشونی؟ گفت خب نه گفتم چرا؟ گفتم ببین قانون ایران مذهب این رو اجازه می اون خانم چون متعلق است با این آقا ازدواج بکنه به صورت غیر م... رسمی. آره غیر رسمی ظنه دوم بشه حتی رسمی مگی تو شناس دیگونه. دیگر نکنم پس میکنی؟ چرا قضاوت میکنی؟ اول خیلی تو محیر بلند که که که که و موضوع میکنیم که که که که که که که که که دیگه که که که که که که که که که که اونا خیلی معدوانه خیلی محترم بود ولی قضاوت نمی کنیم حرفه که میره بچه خیلی مهمه و بعد یه چیزی هم بهتون میگم اگه اشتباه فهمیده باشید شما بار مسئولیت زیادی رو موقع روشون خودتون ننداختیم غیر از حالا خناریم مذهبی، مسحدی و اینا خیلی بارای سنگینی داره خیلی همچیه خطرسوزه چون اگه اشتباه فهمیده باشی یه ذهنشون رو ذهنشونو مسموم کردید و کارو به اون آقا کشون دید و ها درست کردید سر هیچی پس با همون برای همه میگن قدیمی‌ها میگفتن آقای کاظم چیکار کنیم؟ چی نه نکنیم نخیر هر کی می‌خوایم دور تو دهنتو بچرخونی و بزنی خدا به ما چی داده واقعا بیشتر گوش بگه یه دی بیشترگوش کنیم جونم بفهم بله بله حتما آید ایگر خوشوننا نفاسیم نه بکی بیشترگوش ببینیم یه روب یه روب دوستان یه روب یه روب ببین من با خوشدارم شایم با هم گفت بزاریم درس باید خب ما ها تحاد دارم نه امشونیم تحاد بعد دارم باید بلاخرین رو با هم بریم و از از با سه تا این تسجا بریم این عرض الانه هر وقت من گفتم بعد خودتون خودتون رو عرصبی